به امید آزادی و رهایی همه جانداران. جان متنه کتاب. اینجا شهر سوخته است مردمان این شهر را سوزاندند میدانی آنان خود خیشتن را سوزاندند آری آن روزگارانی که ندایی زمین و آسمان را در آنان مسکوت ماندند و از آن تبعیت کردند آخر از دیربازی آنان را آموخته بودند بدین خاموشی حال که ندای در خشم از خیابانها به گوش می رسد، حال که رنج را فدیه به مردم می دهند، حال که این بیداد داد آنان شده است، حال آنچه به طول این سالیان کاشتند را درو می کنند. این بزره همان دورترهاست. همان دانه از نفرت که به دل اینان کاشتند را امروز بارور می بینند. دلم با هوای آلوده اینان نیست، دلم از روزگاران اینان دور و سالیان است که از آنان دور ماندم مرا با هوای آنان چه اینان انقلاب را به آین انقلاب به پیش بردند تنها هدف غایی در برابر همان انقلاب بود چیزی فراتر از آن را استدعا نکردند آری اینان استدعا کردند حق خیش را ادعا کردند بر آسمان چنگ زدند و بر خاک نشستند تا آن چه آرزو دارند را از والاتری فدیه گیرند اینان حق را از آن محقان دیدند و در تمنای آن به خاک نشستند شهرم سوخته است بر دیوارهایش نقش خون رنگ بسته و هیچ از آزادی به میدان آن نیست حال مدام می بافند میدان اسارت را میدان آزادی نامینهند به واژگان می و در تمنای آزادی دل در گرو کلمات بستند ما را با اینان چه ما را با آزادی اینان چه آزادی اینان به قیمت اصارت ما تمام خواهد شد. چگونه این قوم به هج رفته در تواف اسارت برآمدند؟ چگونه عقل را زایل کردند و بر ادعا چنگ انداختند؟ نوشته ها را آتش زدند و به قول فرا قول می دادند، پیشتری خوانده بود، از او دورترها خوانده بودند و ای وای که در تمنای آزادی به اسارت چنگ انداختند. خاطرت هست از حق رائے زنان گفت. پاسخ قبله عالم در ماه آنان چه بود؟ بریق حق خوانده شده تمرد کرد و فریاد وامصیبتا سر داد. او نداد داده بود که پادشاهش بر آسمان این حدیث مجمل را از کمی پیشتر خوانده بود. چرا نخواندند؟ چرا ندانستند؟ چرا ها به این قوم از خواندن و دانستن اینان همه چیزدانان جهان اند اینان را چه هرج با دانستند که از کمی پیشتر همه چیز را دانستند لیکن حتی از همان منبع دانستن هم هیچ نخاندند بی دستکم دست کم آنکه همه چیزدانیتان را مدیون از آنید را بخوانید؟ دست کم به دانش آن باخبر شوید باخبر نشدند و شهر سوخت شهر نسوخته است او پابرجاست مردم این دیار سوختند ذهنها را به آتش کشیدند هیچ از آنان باقی نیست جز مشتی خاکستر، مردمان این شهر به مشتی خاکستر بدل شدند از آنان هیچ جز مشتی خاکستر باقی نمانده است در دل این شهر سوخته از آدمیان غرق نفرت عبور کردند. دیوارهای شهر رد خون در خود جای داد و تیرهای برق جنازه بردار کشیده است همه را بردار کشیدند اینان خرد را هم به دارا ویختند دیگر خردی در میانه نیست آن باید دانست را میدانند حتی بیخاندن کتاب مقدسشان قدسی عالم برای دمی به زمین آمده است خداوندگار آسمان ها برای دمی به میان آدمیان منزل کرده است بزنید بر دستان پرعباه تشبوسه ها را بزنید و او را میهمان خاری خود کنید بر خاکماندگان با پوزه هایی بر زمین آغشته به شرم بوسه میزنند بر تصویر در ماه از ماه به زمین آمده است خدا به پایش قربانی کنید بی شمار از بی را همه را در برابرش گردن زنید امروز روز رساخیز است حتی بی خدایان هم خدا را پرستیدند آنان که به وجودش باور نداشتند، این لاجان بیوجود را میپرستند. سر به خاک در برابر این قدسی آلمیان سر سجود فرو بردهند. بر خاک جسم لاجانشان را تقدیم او کردند. با بوسهی بر دست، با کرنشی بر پا، با فدیهی از جان به منزل او نشستند، هم پیاله خدا شدند. او بر تخت است، حال زمان پیشکش هدایاست. من آمدم تا جان این درباری بی وجود را در برابر دیدگانتان به خاک بنشانم من آمدم تا جسم نجس این زن فاحشه را در برابرتان تان اور آتش بزنم من آمدم تا سر این کافر بدکاره را در برابر پایتان از گردن بدرم و من آمدم تا خیشتن را در برابر دیدگانتان انتهار کنم ای والان شین قدسی ای والانشین بر ما، ای خداوندگار بر زمین، ای سایه و نشانه خدا. مردمان، نه نام آنان مردم نیست، آنان انسان نیستند، جان نیستند، هیچ نیستند. آنان خاکستران در حال ابوت بر آسمانند. این قدسی عالم است که آنان را جان بخشید، آنان را تا مرتبه انسان بالا کشید و حال اوست که آنان را به بیکران فرا خوانده است. در میان آسمان حلول میکند، این اسمای در خاک سر. خاک به آسمان آمده است، در پرواز به پیش میرود و در این سکوت جام فرسا زبانه میکشد انتقام. این انقلاب کینه است. مولا یکی این مر آسمان هاست اوس که بر تخت خدا چنبرت زد اوس که مالک روز جزاست و امروز روز قیامت است احکام خوانده خواهد شد یک به یک را قاضی شهر خواهد خواند خدا در گوش قاضی می خاند و او را به گردن دریدن فرا است برو و ایشان را بدر درید همان کس که در برابر خدا شاهی کند بکشید در راه عدل خانده در این بیدادگاه ما وعده روز جزا نزدیک است و امروز را روز جزا فرا بخوانید به والله هیچ نکردم من معمور بودم و معذور تنها فرامین را به گوش فرا خواندم دستور از آسمان می رسید جایگاه قدسی آسمان ها به نزد ماست، از دیرتری آن را به کرات خاندیم، هزاری به انزار گفتیم، انظار دادیم و وام و ها که نشنیدید. بدرید از جمع این فراموش کاران نابکار، بدرید که این کینه انتقام در خون هاست. مردمان در میان شهر سوخته بو میکشند. جنازهها جنازه ها از مدرسه آویزان است، اما بوی خون در فضا نتراویده است. پس بکشید و به خون بدرید قوم خداوندی طالب دریدن است خاکستر مردم در تمنای خون در خود لول میخورد هم همه سر میدهد و به کرات فرا میخواند بدرید بدرید بدرید فرمان قاضی شهر خوانده شد خدای قدسی در ماه ملای کین لبخند به لب داشت و مردمان در خاکستر دست بر آسمان شكر کردند سرها بریده شد خون زمین شهر را پوشاند و پاسخ خاموش کردن این آتش خون بود خون نابکاران و شاهپرسان مگر نمیدانید این جایگاه تنها از آن خداست به جایگاه خود قرن نشوید که او صاحب همه جایگاه هاست تاقوت را بیاورید او را بدرید شهر ما تشنه خون است او را دیدم چشمانش به قرمزی خون بود هر دو از خون سیراب شدند و حال او سواره است تخت خدایان به راه و در راه و خدا را جابجا جا کردند با چشمان آلود به هم نگاه کردند همه جا خون بود در خیابان در چشم شاه در چشمان خدا در میان قلب مردمان و خدای دیروز شهر سوخته نفرین گفت به لعنت فرستاد و از بخت بد خیش شاکی شد همه را به روز مجازات ترساند و درمیان رجز خواندنش خدا فرمان داد جام به کفان در شهفت با نگاه به غازی شر حرکت کردند. او را بستند به چهار میخ کشیدند مردمان کف میزدند هوار میکشیدند نره میگفتند از دهانشان آب به زمین میریخت و در خون به خوناوه بدل میشد و طوت را آتش زدند. خاک سر مردمان در وجودش خلول کرد او را سوزاند و چشمان به رنگ خونش میدید. یکای که آنان را میدید به چشمانشان فرا میخواند. خیشتن راه درون وجود خدا را حلول می کرد و با او تکرار می کرد. از او و بر او می طلاوت تلاوت می کرد آیه انتقام را. این انقلاب خشم است. جنازهش در آتش بود در میان آتش زبانه میکشید و مدام میخواند انتقام می میگفت از روز جزا از روز کینه که دوباره متولد خواهد شد و مردمان شادمان هل هلهل میکشیدند از سوزاندن شاد بودند از کشتن دیوانه میشدند مستانه میرقصیدند به دور جنازه در آتش تاغوت نام خدا را می خاندند ذکر او را می‌گفتند و او نگاه بر چشم اینان می دوخت. چه مردمانی؟ چه خاکسترانی؟ چه خاک برسرانی؟ آخر خاک بر سر میکوفتند میدانی چه روز؟ آن روز که خدا مرد خدا مرد لیک در دور زمان بودنش هزاری را کشت هزاری را به کینه و انتقام درید آتش زد برای بودنش سلاخی کرد همه را به مردن فرا خواند مردمان را درس مردگی داد و اینان مردند اینان خاک سر سوختند اینان سوخته در آتش جهل خابیدند نمیدانی در طول بودنش خدا چه ها نکرد همه را دیدم همه را به چشم و در برابر دیدگانم دیدم همه در برابرم بود هر روز به کابوس همینان از خواب برخواستم هر روز با تکرار همین مشق مرگ ماندم مرا به جنون فرا خوندند. در این دیوان خانه دنیا مرا رها کردند میدانی چه دیدم؟ آن روز را به چشم دیدم که قربانی کردند راه خلافت خداوند بر زمین همه روزهای درد را دیدم آن روز که زنی را به دار ویختند آن روز که فاهشی را سوزاندند آن روز که سربازان را کشاندند همه را به چشم دیدم دست بریده شده از دوزان را دیدم و باز نخاندند زنی آرام به گوشم از زجر بریده شدن دستان گفت و وام و ها که خدای رحمان را پرستید از او طالب رعفت بود مظلوم ظالم را خواهش کرد قربانی سلاخ را عبادت کرد، معدوم جانی را ستایش کرد و من تو را فرا خواندم توقیان تو را هم رام کردند؟ مردمان خاکسترنشین دست به دعا طلب توقیان می کنند از کیفر کننده یاقیان. به چشمانم اشک خوش ماند و دید زنی را که به دارا ویختند. جرمش چه بود؟ وزارت؟ وزارت علم، دانش، خرد، اندیشه، فکر او را کشتند و جوانه برامده از جانش را به آتش کشیدند تا باز خاکستر نشینان به پیش روند به جنگ بدرند، بدرید هرچه در برابر ماست همه در برابر بودند هر که اندیشه کرد، به شکاویخت، تفکر کرد، همه در برابر بودند فرزندان بلیده شده را خدا غی کرد و اینگونه بود که آنان را آتش ستند در برابر پای خدا تا ای آرام شود این خدای کینه ها خدا فرمان سرما داد و به آتش هیزم از خرمن جوانان درو کردند جوانان یاغی را فرا خواندند فرا خواندند تا در برابر سرمای خدا آتش زنند و اینگونه بود که دوباره همه چیز سوخت همه در آتش این نفرت سوختند و خاک سر شدند خاطرت است چگونه هزاری را به آتش کینه سوزاندند خاطرت از مردم سوخته این شهر نفرین شده است خاطرت است چگونه آهوان را به شکارچی تسلیم کردند چشمان شهلای آهوان دشت را دیده ای؟ خدا زشت بود زشت و کریح آنقدر نازیبا که فرمان از هدقه برون آوردن داد در برابر تخت عظیمش بیشمار آهوان جوان را آوردند آنان را به زمین کشندند تا برابر قدوست او به خاک افتند و یاد چشمان زیبایت خوش و شیرین باد یگان فریاد مانده در گلوگ یاقیان چشمانت را برون کردند، بر برپای زخم دارت مدام شلاق کوفتند و مردمان شاخت فریاد زدند تو را آنان فروختند، تو را به بهای کم فروختند، به بهای آتش کینه و انتقام پرستی به ذاتشان. ذات دردمندم فریاد میزند مرا فرا میخواند و به رنج آمده است تغلا میکند و با همان گلوی دریده شده از زجها خوانده است مرا رها دارید تا خیشان فرا بخوانم مرا رها دارید تا طعم برابری را به شمایان بفهمانم و او را نیز دریدند در میان همان سیاه چالها، در میان همان برهوت از مر، مهر مهر میدهند به پدران مهر دخترشان را دادهاند. پدرم دردمند روز جزاست جزای هزاران سالهی به عمق های انسان به عمق تمام کجیهای خانده به خیش اون می این فرمان را فرمان والان است آموختند فرمان برداری را و حال که دخترش را دریدند حال که این بار مهنت را به دوشش افکندند فرمان را فرا میخواند. با هرچه از شکست و درد و رنجه هست فرا میخواند او فرامین را فرا خوانده است او آنچه بر او امر آمده است را فرا خوانده است و خدا میخواند به پای بزرگ قدسی عالم هدیه دهید فرزندانتان را او را هم دیدم او که فرزندش را به جوخه مارکس سپرد حال دست در دست هم به پیش می هرکدام هر کدام جایگاه و پایگاهی خواهند داشت در عرش کبریا یکی دوشادوش ابراهیم منزل خواهد کرد و دیگری را به ذلت فرزند رام نشدهش چندی برای رام خواندن به آرامی به سیاه چال خواهند سپرد و در آغوش نوح خواهد بود لیک سرآخر دنیا از آن سر به زیران است گوش به فرمانان است گوش فرادهید منجی عالم فرزند خدا نه خود خدا ماه تابان خورشید عالمگیر از دنیا پرچند و به آسمان گریخت روح خدا به خدا پیوست. مردمان متوش، مردمان گوش به فرمان، مردمان رام، مردمان اسیر، مردمان خاکسرنشین، مردمان شادمان از جلادان، مردمان همکار ظالمان، مردمان خودفروش، مردمان خائن و جنایتکار، مردمان، همه مردمان خاکسران در آسمان خود را به آتش کشیدند. حال در میدان شهر سوخته آنجا که روزی در میان میدان شهرش همه را سوزاندند، خاک بر سر میکوبند و بر زمین میلولند بر سر و صورت خود میکوبند بی پدر شدند، بی خدا شدند، بی صاحب شدند ذکر و ها در زمین و آسمان پیچیده است راستی مردم، او هم جانی داشت به مثال همان زن درباری وزیر به مثال همان زنان فاحشه به مثال بیشمار زنان دربند به مثال بیشمارانی که زیر شلاق باریدند زیر تجاوز زاییدند زیر اصارت تابیدند زیر جوغه های دار باریدند او هم مثال همان مردی بود که اشک ریخت بر چهار پایی دار خون گریست مردی که به زیر شلاق جان داد مرد، یکی اضرار کرد و دیگری جان کرد همه مردند، همه را او کشت و حال مرگ او را برده است هزاران بیگناه، هزاران قربانی، هزاران سرباز، هزاران دشمن، هزاران انقلابی، هزاران متاسب، هزاران و هزار همه را کشتند و حال مردمان خاک میریزند، بر سر و صورت خود میکوبند یاد صورت بدسیرت در آسمانش افتادم یاد آن نگاه در میان آسمانها یاد آن لبخند از بدارا ویختن یاد آن پدر کودک کش یاد آن پدر مهردار مهریه دخترش بعد از تجاوز را چه کرده است؟ پدر فرمان مردار را دیدم آنکه خود فرزندش را تیر باران کرد آنکه بر سر و صورت او کوفت او را دست بسته به قربانگاه برد و چاقوی تیزی که خدا برایش تدارک دیده بود را به گردن اسماعیل گذاشت خدا آرام و با ادراک او را فرا خواند و اسمائیل را بخشید شلاق به دست پدر داد پدر در زندان است در میان مخالفان است در برابر یاقیان در برابر تاقیان آسیان او آنان را به شلاق حد می‌دارد فرزند قربانی کرده و نکرده امروز در حال قربانی بیشماران است. روزی پیشتر آنجا که انقلاب خشم سمر کرد او به پیش رفت و کینه را فرا خواند آن کینه که خدا برایش مدام می آن جایگاه قدسی این حس فراگیر بر او خواند و او بود که بیمهاباب میدان رفت. دشمنان را سلاخی کرد. آنچه فرمان آمده بود را به پیش برد در میان جمع یاقیان رو سوخ کرد و اینگونه بود که به زنگاه فرمان را سر کشید. بر روی همه گلوله بست و دیگران را به شلاق حد در زندان زندان کرد. او پیشتر رفت. آنچه فرمان آمده بود را پذیرفت و بیشمارانی را به آویخت در برابر دیدگان خدا آن کرد که فرمان آمده بود. همه را در میان بیشمار از مردمان مشتاق خون آنان که بدین جنون ایمان آوردند جردن زد خون میتراوید و بر صورت مردم میریخت آتش خاکستر درونشان کوچک و کوچکتر شد و تنها خاکستر از هرچه در پیش بود مردمان در کمین در آرزوی دیدن خون بیشتر در خیابانها بودند آنان فریاد میزدند و خدا عمل میکرد. در این جنون با خداوند و خالق در رقابت بودند خودخیشتن را می به آنچه او تقدیر خانده بود و اینگونه بود که او و آنان در درهم و ازهم شدند یاغیان کم و کوچک و اندک و ناچیز ماندند همه برای او بودند همه رام در دنیای او بودند گردن بر دنیای او نهادند و در آن غرق شدند و حال صداست که همه دنیای مرا دربر گرفت همه جا را صدای آنان پر کرد در خیابان صدا می آید گاه صدای هلهله است گاه ندای مصیبت. مرا با هل اینان چه کار که از دل این قلب های سوخته و آکنده از نفرت هیچ جز خشم نخواهد بود همه در خشم اسیر ماندند، همه دل در گروه این خشونت دارند و این گونه است به ندای هر کدامین این هلهله ها و به نزدیک در میان آنان تنها سوختن را دیدم تنها به داراویختن را دیدم، دیدم که چگونه بیشمارانی را به آرزوی این مرگ و کشتن به فریاد فرا میخواند. از دیدن ترس در جانانان قره میشوند بر خود میبالند بر بزرگی خدای خود سجده میگویند و در میادین شهر جمع مانده مینگرند زجر یکدیگر را یکدیگر یکدیگر را میسوزانند در میان همین شهر دیدم آنجای را که قطار به پشت هم ایستاده یکی آتش میزند و همه میسوزند همه به پشتبندی هم می سوزند. همه را دیدم در میان میدان شهر به داراوی شدن را دیدم و آتش نفرت درون چشمهای معدوم را دیدم دیدم که زبان کشید و هر زیبایی و مهر بود را به دل اینان کشت همه را در خود خاک و خاک سر کرد همه در آتش این جهل میسوزند. ندای فقان و درد بر آسمان است فرا میخواند خاند بیشماران را تا به پیش روند در خاک بنشینند و جایگاه قدسی خدا در آسمان بر زمین نشسته را بپرستند بر جای پای و خاک او بنشینند و از آن تبرک جویند حال در میدان شهرم هم در میان همین تعداد بیشمار از مردمان در مرگ. مردمان جویای مرگ، تشنه به مرگ و آشق مرگ، اینان پرستندگان مرگند. آمده تا بر ذریع خداوند، بر زمینشان سر به سایند و خیش را قربان راهش کنند. بیشماران در برابر را دیدم، که چگونه جانبرکف ندای ماتم سر می دهند، بر سر و صورت می کوبند و حال میدانم چگونه جلادان برای جماعتی مبدل به خدا می شوند. چگونه مظلومان ظالمان را پرسیدند و در میان شهر سوخته و به قلب مردمان دردوند این خاکسترنشین باز هم او را می قوم طالب مرگ بنگرید او مرده است با هم بسایید سر را بر آسین این دیو هزار روی بدرید جامعه ها را تن خیش را داغدار کنید و از دست دادن فرمان بی فرمان مانده فرمانده مرده است برای معتادان بدین طریقت چه دردناک که فرمان قدسی از میان رفته است دیگر کسی را فرا نخوانده تا به خون ریخته او دوباره از نو سراغاس شوید من تنهایم تنها در میان شهر سوخته از مردمان خاکسترین مرا تنها به گوشه ای وان جمع یاغیان کم و اندک است و من تنها در میان مرگ برستان واماندم بیشماران به خاری خود را در برابر قدرت او فروختند به عشق و نفرت او را پرسیدند و فرمان بر جایگاه رفیع او چشم تخفه دارند تا شاید ذره نصیب آنان شود مرا مراینگونه به تحقیر نخان میدانم که والا بودن تو به تحقیر ما خواهد بود میدانم که تمام نیروی زیستن را از میان همین کوچک خواندن ما جسه لیک مرا از جمع و درمیان خود نخوان. مرا یاغی بدان که آمده تا حق خیشتن را بس روزی در دورترها به جلادان سرخم کردهاند تا کوتاه شوند و سواری دهند و امروز در برابر این دیورویان سر راست کرده تا راحتتر گردنشان را بزنند. دوباره همان داستان پرتکشار قدیم است، بر تخت خدا چنبره زده فرا میخواند تا او را بخوانند تا از او سیراب شوند و در راه او بمانند. و من همه را می بینم. همهی آزادی های خانده شده را، آنچه از آزادی نصیب ما کردند، تفهه از اثارت ما به قیمت آزادی آنان بود. آنان ما را معامله کردند، تا آنچه درون ماس را دریابند و از آن خود کنند. دریقا از روز نفس کشیدن و وانماندن، دریغا از سانگه رها بودن و هربار چکش دردناک فرمان بر صورتم است، بر روی دهانم کوفته است، مهر سکوت زده تا ساکت بمانم. تنها از آن فرمانده نیست این فرمان برداران مرا فرا میخواند به سکوت. کسی به گوشم گفت چیزی نگو از جانت سیر شده ای. آرام بگیر، رام باش، مسکوت باش، فرمان بردار باشت. آزادی برای است که اسارت ما را پذیرفتند. آزادی دیروز آنان هم فرمانی بود از خدایی در تخت و امروز هم خدایی در آسمانها فرمان داده است. مروارید درونم را چنگ میزنند. به روی مروارید صدف کشیده تا در امان بماند از شر نامهرمان نامهرمان بیایید و ببینید او به همراه خود گوهری دارد دوری نایاب که اندرون آن صدف بشیده است او را به روی سنگ های ساحل بکویید تا هرچه درون اوس را صاحب شوید مروارید برای درخشیدن است او را رها دارید تا زیبایش را دنیا ببیند باید این مرواریت های به درون اجتماع بیایند و کار کنند باید برای پیشرفت در خیابان باشند بی همه چیزان همه چیزار نادانان همه چیزان مرا رها دارید و بر گریبان من نیاویزید من آزادی تنها و دور از تمام معانی اندرون شمایم من خیشتنم نزرهی از فرامین شما مرا با فرمان سر سازش نیست مرا به طغیان فرا بخانیت آزادگان یاغی اما اینان که رام میخواهند تسلیم میخواهند بنده و عبد و عبید میخواهند باری به گوهر در صدف و باری به شکستن صدف ها هرچه هست اینان فرمان دارند و فرمان بردار میخواهند آزادی را به قربانگاه بردند او را گردن زدند و حال بیبال و کوپال بی اختیار و یاغیگری آزادی را برده کردند غلام حلقه به گوش آزادی در برابر دیدگان است او را به زنجیر در خیابان می‌گردانند. همه به او در میآویزند و او را آبستن کردند کنیز آزادی امروز آبستن است او از هزاری معانی توهی آبستن است او دستآویز است او را به بازی و در خدمت خیش خویش درآوردهاند و بیشماران در تمنای او او را تسلیم خیش فرا اند. حال او با هزاری فرزند در پیش است فرزندانی حاصل تجاوز به وجودت تنها واژعت بجاست به, به مثال پاکی تن که تنها پردههای اورت زنان معناگر آن شد هر دو بی‌معنا برای هزاری معناگر زیستن است آن روز را دیدم که بیمنایی معنا کند و واژگان بسازد تا آن روز باز هم شب پرستان در میانند و من بیمار را ببین که در میان این عاقلان اسیر ماندم من عاقل زن بیمار بنگرید مرا به ستوخ آورده اید از بیشمارتان بیشمار از یاغیان را دریدند یادتان است شلاق بر پای بیشماران کوفتند را یادتان است به جوخه های دار سپردند را یادتان است زنان را به زور به هجاب و بیهجاب کردند را یادتان است من تنهایم تنها ترین تنهای عالم به سطوح آمده فریاد براوردم مرا به سبر فرا خاندند. به تسلیم مبادرت می کنند. به فرمان میدارند. مرا در اسیان وجودم رها کنید مرا با توقیان تنها بگذارید تا به فردا از درون عشقمان یاغیان یاغیان برونهایند فرزند خلف من و توقیان یاغی خواهد شد او یاقی به این جهان خواهد شد به هرچه نظم از شماست کافر خواهد بود او را ملحد و مرتد بدانید او از آمیختن این نام بر خود خواهد بالید که او محارب با خدای شماست اما فرزند نداشته در بالینم ای رحم خشک مانده بر جانم تنهایم دوباره تنهاتر از همیشه در خلوت و درد ماندم دوباره در این برهوت دنیا بی یاقی و تاقی باقی ماندم مرا من از خود ندانید، از خیش نخانید فرزندان من فردایی به دنیا خواهند بود در دوردستانی دوردستانی که یاغیان جهان را از خود کنند دنیا را به آشوب برند که جهان تازه‌ای برآورند. اما امروز باز هم تنهایم، تنها تر از همیشه در میان شهر سوخت گام برمیدارم و هیچ در برابر نیست جز بوی خون و اجساد مرا هیچ در خاطر نیست جز فرمان مرا با فرمان راه سازش نیست که فرمانده را از جای خواهم کند بنیان قدرتش را در هم خواهم کوفت و آن تخت بدکارگی قدرت را در هم خواهم دارید. از آن زشتی بیکران دیف ساز هیچ به جای نخواهم گذاش که دنیا را به یغما برده است هیچ از اینان با من نیست، هیچ از اینان در من نیست مرا از اینان ندانید، مرا فرمان بردار نخواهید مرا در تمنای آزادی ندانید، مرا یاقی دوران بخوانید. به میانتان غریب زاده شدم و بی ماندم مرا از خیش نخوانید به روزی در دوردستان دستان فرزندانم پدید خواهند بود که از زایش آزادی و غرور فرزند یاهی خود را به جهان خواهند داد هرچه تعریف کندند را به دور افکنید، کنید واجگان از نو سرآغاز خواهد شد دوباره معنا خواهد گرفت و باز خواهید دید که چگونه سر برون خواهد داد آری تصمیم را گرفتم میدانم باید چه کنم چگونه باید جهان را به پیش برم؟ مرا در میان خاک خواهند کاشت و دوباره خواهند رویاند مرا آباد بجویی که در جریانم هوا سرد بود خیابان به مثال هر روز در حال جریان بود همه می گذشتند، می رفتند، می, خریدند, می, خوردند, می و مردگی می کردند کمی زنی را در خیابان می زدند. مردی را به زور سوار میکردند، در زندان شلاغ میزدند، در خیابان اعدام میکردند، دست دوستان را میبریدند، هرزگی را قانون میکردند و ندایی در آسمان و زمین از زبان خدا خوانده میشد. بکشید آنکه در برابرتان است را به خاری بکشید. من در برابرتان بودم، در میان همان شهر سوخته بر زمین همان خاک سر در میان همان سوز و سرما نشستم و تحسن گردم خاطرتان هست بر روی سنگ قبرم چه نوشتم برای آزادی و برابری جانها از جان گذشتم تا روز رهایی تحسن خواهم کرد چه آرام از کنارم گذشتید رام به پیش رفتید و گهگاه لبخند زدید یاد آن روز بودم یاد آن روز که مردمان را با کامیون دفن کردند کسی آنجا بود رهگوسرانی آنجا بودند و دیدند شاید لبخند زدند شاید خندیدند شاید به تمسخر خاندند شاید به دیده منت پذیرفتند همانگونه که پدری به دیده منت پذیرفت و سر برید در برابر خدا تنها پسر ناخلف زندگیش را آن روز هم در میان آن سرما و جنازه ها آن آنکه رو به تیر دریده شدند میخندید خدا می خندید از این سیل رام در برابر که فرمان خوانده شده به گلو را در میان آسمان و زمین می میخوردند می و می آشامیدند تا هر آنچه خانده شده است را به پیش برند فرمان جهاد است بدرید آنکه در برابرتان است برادرتان است نمیدانم اما برادر که دارد؟ شاید نداشت اما او هم فرزند کسی است بدرید او را هم بدرید و بگذارید دنیا جای گذر کردن است؟ از کنار من تنهاتر از همیشه هم گذشتید یاد آن نگاه کودک در بند افتادم چگونه به من نگریست و مادر را پرسید چرا اینگونه نشسته است؟ چشمان منتظر او در نفسی تازه برآمده بود که مادر و مادران او را خفه کردند بر دهانشان نشاندند از آنچه همه میدانند همه می‌خوانند همه میدارند و از او هم داشت او را برداشت و برد تا باز تنها به جای بنشینم من که بر سنگ قبر خود کاشتم آنکه در کنار من باشید با هم باشیم و در تن هم حلول کنیم من که خاندم در پی آبستن کردن زهن ها لیج لیچ مرا رها کردید و به فرمان در برابر چنگ زدید مردمان به گذر از روز گذشتند و من تنها به جای ماندم تنها تر از همیشه بر جای خواندم و فریاد در برابر خدا زدم خدا بر تخت بود و بیشماران او را خدا کردند آی مردم بنگرید او هیچ نیست او همتا و هم همپیاله شماست شما او را خدا کردید او به کوچکی شما بزرگ است او به تحقیر شما کبیر است آی مردم بنگرید شما او را خدا کرده اید. الهی الاف خدایا توبه توبه توبه می کنند و در انتظار فرمانند فرمان قدسی که شنیده شود مرا به بند خواهند برد عمری در بند اینام بودم و امروز روز رهایی است روز پریدن است روز پرکشیدن است روز تبریجستن است مرا از آدمی ندانید مرا جان بخانید و در جان معنا کنید مردمان در گذر پیشتر مرا دیدند و بیشتر مرا خندیدند او تنها و بی‌کس درمانده و دیوانه آمده تا انقلاب کند آن هم انقلابی در برابر این قدرت بی همتا آری آمدم انقلاب کنم. آمدم ریشه از خدا برکنم از اطاعت و فرمانبرداری بدارم آمدم تخت خدا را ویران کنم. من در تحصن و یک روز از این فریاد گذشته است که برای فرمان برداریتان بازی به پا شده از حماقتم. آخر آنان همه چیز را میدانند. میدانند چقدر ذلیل و کوچکند میدانند چقدر حقیر و درماندند میدانند خدا چقدر عظیم و بزرگ است و میدانند برای رفع حاجت تحقیر چه کنند دیوان زن عاقله برخیز و شوهرت را دریاب او در انتظار توست ظرفها را شستهی که به خیابان آمده ای؟ اینها همه از درد بیشوهری است آخر و زمان است زنان پادشاه می شوند. درد شکمسیری جنون ادواری است گفتند و تاختند و گذشتند و من در نگاههایشان به یاد روزگاران افتادم به یاد روزگارانی که درباریان را دار زدند و سکوت کردند گناهکاران را دار زدند و هوار کشیدند دوزان را دست بریدند و مشارکت کردند. مردان را شلاق زدند و طوفان کردند زنان را تجاوز کردند و باران کردند رحمت از آسمان بارید. آخر خدا داشت سر گوسندی را میبرید. خون بود چیزی نیست مردم دوست دارند. مردم را دیدم همانان که به انقلاب خشم خواندند همه در برابر جلاد ایسادند چشمان خونبارشان در تمنای خون بیشتر است و اینگونه دست به آسمان یکی را پیشکش کردند او هم فرزند کسی بود شاید پدرش پیشکشش کرد شاید هم مادرش نمیدانم. شاید هم پدر و مادرش در برابر پیش شدنش ساکت ماندند شاید ناراحت شدند اما بروز ندادند آخر همه فرمانبردار بودند عبد و عبید و بنده را چه به اسیان و تقیان آنان دادند و خدا قربانی کرد خودش بندگانش را سیراب می کرد و بندگان با چشمان باز آسمان را نگریستند و خون به چشمانشان جاری شد به درون وجودشان غلیان کرد و به سویم آمدند مرا فرا گرفتند از دهانشان خون می ریخت. چشمانشان خونی بود همه جا خون بود من در خون بودم مرا به خون وا مگذارید مرا در خون رها نکنید میکشتند و به پیش میرفتند؟ یکی در میان قفل فریاد زد آزادی؟ او را آزادی دادند؟ خاطرم نیست از کدام دست آزادی ها بود؟ شاید آزادی در پوشاندن و یا شاید در برداشتن حجاب اما او را آزادی دادند آن آزادی که خدای امروز در آسمان ها فرامی کسی از دل جماعت فریاد کرد برابری او را فرا خواندند و به پیش فرستادند تا در برابر خدا زانو بزند آنگاه که زانو زد خدا فرا خواند او برابر بود با جایگاه خدا بر آسمان در زمین او خدا بود او خدای بر زمین بود او همان بود که آزادی را معنا کرد همان که برابری را فرمان داد و او خود خدا بود حالا اوس که در پیش قراول این قوم در پیش است و هر که در برابر دیدند را می درند هر که ندای است را دریدند کسی از نگاه دیگر گفت خدا فرمان داد و بیشماران اجرا کردند حال این ماشین کشتار در پیش است همه را میبلد و همه در تمنای آنچه برابری است آن برابری در قلب برتری آن برابری در اسارت یگانگی می تا بدان نزدیک شوند مرا از اینا نخوان، مرا از جان نام بگیر و بر آن معنا کن مرا از یاغیان بدان آنکه غرور کاشته به دریای آزادی تا فردای جهان را اقیانوس برابری فرا تا به فردایی در همین نزدیکی سر برون آورد یاغیان جهان تازه ما آتش کینهای ساخته در دنیایشان به نزدیکی جانم است در همین نزدیکی از همان دوران از آن دوردستان به کنارم همتای و در دوشادوشم زبانه میکشد. آتش زیر این خاک سر نفرت به خواسته است. آنکه در چشمان خونالودش شول از خشم فرون فرا فراخند تا بسوزانند هرچه بزر از تغییر است. آمدند در برابرم در برابر دیدگان آنچه از تغییر فرا میخواند باری به آتش خشم، باری به کینه باری به تمسخر و باری به درد، همه را فرا خواندند تا بدانید اینجا شهر تسلیمان است. همه تسلیم در برابر او هستند و او تسلیم در برابر قدرت ویچران ها. همه در این سیر دوار محکوم به تسلیم ماندنند. مرا سر آسوده با این صبر پرستان نیست. با این در خودماندگان نیست. با این فرمان برداران نیست. مرا به تغیان فرا بخانید. مرا در میان های آتش بکارید من از آتشم به آتش آمده در آتش جوانه خواهم زد اوس که میسوزد در میان جهان خشمالودتان در میان دنیای تاریکتان آمده تا نور بتابد او آمده تا این نیستی را از ریشه برکند، او آمده تا مد به میان سوخت جهان رفت او سوخت جهان جز تمنایی به خود زد او سوخت و در سوختن آتش به جهان زد بیدار جهان را به فلک باد خزان رفت بوی آتش و خون به مشام میرسد و مردمان گرد آمدهاند گرد آمده تا به بالای سر یاقی برخسند و بتازند آمده تا شادمانانه هلهله سردهند پدران شاد از سخت خیش برآمدند مادران را تحفه دادند جایگاه شاهی بر کودکان کودکان را نوید دادند تا بار دیگری خدایی کنند و خدا در آسمانها شاد قهقه میزد در میان شهر سوختم از آتش تمام دوران اصارت ها از تمام بردگی های دوران ها از تمام به تنگ آمدن این خیابان ها از بودن در میان این مرگ خواندن ها، سوختم و تنها به میان خاک ریشه خواهم کرد. این ریشه از چجاعت است، باری در میان کوچه های بیبزاعت است، این لاشه ترس در حماقت است این فرمان جببار در قصاوت است. می سوزد این جسم و بیجان جان تلاوت جان خواهد کرد جان رویانده خواهد شد که دوباره سراغاز کند از نو بروید و شکوفا کند لیچ مردمان همانند همانان که دیروز گذشتند از روی جنازه ها پریدند از برابرشان کامیون کامیون لاشه گذشت خود اعدامی ها را تحویل دادند، هیاهو کردند برای بداراویختن برای کشتن و درد دادنها ها، هر روز می‌بلیدند این جنازه های در خون را، به اعتراض می‌خندند، به انقلاب قهقه میزنند، به تحسن تبسم کردند و به آتش کشیدن و خودسوزی را انگ و ننگ خواهند زد، او دیوانه بود، بگذار حال در میان رویا و بیدار بخوانم از آنچه تغییر بود تغییر که از برای جان بود از احترام بر جان بود از آزار ندادن بود از همتایی و برابری بود از آزادی و رهایی بود از برای قانون بود و به راه در برابر بیشمار فرمان برداران بود ما را به طول این راه سر سازش با جبر نخواهد بود به آن چه ایمان است پشت نخواهد کرد و اینگونه بود که راه را تصویر به تحصن کرد تا به تبلیغ بگرایند بیشمارانی بدین راه تغییر بر جای و هیچ از جماعت مرگ است خش خوی نصیب نبود جز آتش خون و خشم تمسطر و تخییر و اینگونه او را فرا بنامی به نامی که از خاک سرش ریشه خواهد رویید به تراوت دوباره برخاستنها. دوباره زیستن و دوباره ایمان خواندن ها او سوخت تا به آتش برآمده از جانش بیشمارانی بیدار شوند به خود آیند و این پوستین اسارت برکنند نور در تاریکی از آتش سوختن یاغیان است میسوزند میسازند و جهان را دوباره سرآغاز خواهند کرد با انسانی تازه که نامش جان است کتاب شهر سوخته اثر نیماش سواری؟ بخش دوم. در میان کابوس بیداد برخواستم از خون. در میان خاکستر سر تننم برخواستم و باز ندا خواهم داد این آرزوی پرتکرار را کجاست نسیم خوش آزادی؟ در میان گلوی درید شده اطلانه کرده است، او را از خیشتن بروندار در میان نسیمش نفس بکش او از تو برخواهد خواست از میان ندای حنجره تو به پا خواهد خواست این ندا را به هر کوی و برزن به صدا خواهند داد و خواهند شنید لیک کسی بیدار نیست کسی صدای مرا نشنیده است اینان آلوده به پرسیدن ماندهاند در این هیاهوی مرگ پرستی خیشتن را آویزان هقارت اسیر بر جانشان کردند. او را می شناسم. او اولین سنگ زنندگان بر پیکرم بود. در میان میدان فریاد، آنجا که ایستادم در هوای آنان و فریاد برآوردم، آنجای که جنازه متعفن کینه را به خاک سپردند، بیشمارانی مس شده خیشتن را به پای جهل انداختند. بر کعبه بردگی سجود بردند و بیمهابا در این جنون پیش رفتند. آنجا که خاک بر سر می کوفتند جماعت آلوده به پرستیدن و سکون، آنجا که من تنها به خیابان بودم، او را دیدم. او اولین سنگها را به رویم پرتاب کرد. تحسن کردم، بر جای نشستم. مرا خیال فردایی روشن بود، فردایی که در آن همه آزاد بزیهند و در آزادی خیش جهان بسازند، من نشستم تا بیدار شوند قوم بیشمار در خواب مانده تا آنان که خیشتن را به آفیت فروختند بیدار شوند و از آنان هیچ صدایی در میانه نیست همه خود را فروختند ارباب والانشین خود را فروختند او از این سیر دوار در خیش مانده به گل شادمان است و اوست که بیمه هابا به سوی من سنگ می اندازد بکشید این کافر لاجان را کفر او بر قانون ماست. آری من تحسون کردم. از برای تغییر آنچه قوانینتان بود من به خاک نشستم تا در خاک نکارند مردمان را به چهارپایه ها نسوارند جان را و به تناب نفروشند میهمان را. نفسهای حبس در سینه را درمیان جوخه های دار دیدم و او بود که سنگ در دست آنگاه که مرا میزد به چار پایه دربرابر کفت و او را ساکن کرد او را به مرگ هدیه داد به نظم در خون قدیه کرد و در انتظار پاداش نشسته است اوست آن کس که نخستین بار مرا دید مرا درمیان خیابانها دید دید که به زمین نشستم تکان نخواهم خورد تا روزی که دنیا را تغییر دهم تو مرا در خاک نشسته میبینی و بنگر که من ریشه در خاک باز میکارم من ریشه میدوانم و درخت رویش مرا در روبرویت خواهی دید که چگونه دوباره میکارند و در نهای زایش جهان را گلستان یاقیان خواهند کرد شادمانانه سنگ کوفت و با تمسخور بر من خاند تو با نشستن جهان را تغییر خواهی داد در جا خواهی بود و بر شمار بی شمار معدومین خواهی مفسود و اینگونه بود که رعد آسمان را فرا گرفت و ماه به زمین آمد ماه بر زمین نگاه به رخسارش کرد و او را در خود به جا گذاشت حال او عمری است که بی تحرک است دیگر دستی برای معدوم کردن در میانه نیست دیگر کسی به چهار حال لگد نخواهد زد و دیگر سنگ ها به سوی موترزان پرتاب نخواهد شد دیدی چگونه آدمی بی کمتر ظلم کرده است کمتر آزار داده است و بیشتر آزادی را فراخوانده است خاطرت باشد که هیچ و اگر نیست بنگر به جماعتی که بی در برابر جابران نشستند نشستند و هیچ نکردند که او هیچ نتفان کرد. همه چرخ باز بازی ایستاد و در جای ماند تا دیگر موتور مطور کشتار کار نکند و نکرد. کار برای انجام بسیار است. آنچه کار بود را بعد از این ایستادن ها خواهند کرد. بیشمار خواهند بود که در میان میادین همه کار کنند. اما این تسکیه روح آنان را آرام خواهد کرد. این بار رام نیستند که مطیع فرمان باشند این بار به خیشتن خواهند پروراند و از خود خواهند ساخت لیکن ببین مرا که تحسون کردم با سنگ فرا خواندند، با سنگ در دستان به تحقیر به پیش آمدند تا از میدان به در برند و دوباره حدیث مجمل از فرمان خیش را فرا بخانند راستی فرمان بود که دستان آنان را سنگ داد فرمان بود لیکن نهان فرمان در نزدیکی و به امر آمران که از دیرتری آنان را بالو پردادند تا به نوبت دیدن خیشتن فرمان دهند آنچه فرامین دورترها بود. حال من در میدان و آنان بیشمار در برابرم خواهند بود. این بار تمسخر کافی نیست. این بار به تخیر کار را پیش نخواهند بود. این بار بوی ترس از مشامشان بلند در آسمانها فریاد میزند. او توان برخواستن خواهد داشت او توان بیدارگری خواهد داشت و او را انقلاب و تغییر بخوانید. در میان آن دور میدان در آتش آنجا که سوختم و از رام یک به یک مردمی گذشته بودند آن کودکی که آرام به چشمانم نظر کرد و فردای خود را در وجودم دید آنی بود که از این توقیان به شور با خود فرا خواند که زمان ایستادن است این بودن و فریاد کردن بیدار خواهد کرد و ندا از دل شهر سوخته شنیده میشد. هر هرچه از خون دور بودند، هر خاک سر را پی خون به جای گذاشتند. هرچه دور از این وحشیگری و خونپرستی در ذات آنان بود، آنان را بیدار کرد. آتش به درون سینه هایشان را شعله ور ساخت و فریاد برآورد. حالا ندای کوچک و نجوای آرام آنان را میشنوم. شنویم. صدای آرام به گوشم رسیده است. با فرمانده کار نیست، با برخی از فرامین جنگ میداندار است. این چرخه نوزهور خواستن رام برخواسته است. از دل آنان که خون را به درون خیش راه ندادند. به نظرت در آن روز مرگ، آن روز پیوستن پرست و در آغوش معبود بودنش آنان به میان میدان بودند آنان را آن خشم خوانده در دل این مرگپرستی به خود فرا خواند نمیدانم اما آنان خون را به درون خاک سر لاجان وجودشان منزل ندادند که صدا شنیده شد فرمان پادشاهان اشتباه است این امر را به درستی نفرمودند راستی اگر فرمانش درست بود اعتراضی به میانه نبود فرمانده چه فردا روز فرماندهان است و این سیر دوار بیمار در نهایت ریشه را خواهد تیت نمیدانم اما در دور دراز زمانی است که بیمهابا مردمان شهر سوخته در تمنای آرزوی بزرگ قربانی میدهند. بی که حتی باری به قربانی دادن خیش بنگرند به والا شمردن این جایگاه رفی نظر کنند و دوباره این قدیسه زمان را پرستیدند. آرام و رام در پشت سجادش سجاده پهن کردند و به نماز نشستند و آنگاه خون دامنگیر او بود که در میان خاکستر جانشان رسوخ کرد تا دوباره خاموش و در جای بمانند. در جای ماندند و هیچ حرکتی از آنها نیست. بیمرووطان دست کم به میدان بیایید و همان گونه آرام و رام در جای بمانید. بیتر بنشینید بنشینید که این همدستی نکردن شما با ظالمان چرخه این ظلم را از حرکت باز خواهد ایستاند اما آنان به میدان بودند. گاه برای پیشبردن آنچه فرمان بود و گاه برای سکون و درخون ماندند. آه امر پیش بردن و به نهایت هرچه کار در میدان بود همه و همه در میان همان فرمان بود که گاه با صدای بلند و فریاد به امر خواند و گاه به نوازش در میان بوسهها. گاه از دل نوای مادران و گاه به آرامش و لالای کودکان هرچه بود همه را کسی امر کرد و آمران در پیش لباس مبدل و بدل آن کردند که در پیش فرمانده خوانده بود و دوباره همه چیز را از نو سراغاز شده است از لابلای فریادهای درون سینه های ندایی خواهد تراوید که جهان را دگرگون خواهد کرد شاید کم توان و کم رمق، شاید آرام و رام، شاید دور از ریشه ها و در پی ساغه ها. لیک بارور خواهد شد، و هر روز جوانه خواهد زد دوباره رویش خواهد کرد و هر بار قدرتمند تر خواهد شد پس از این سالیان در اسارت ندایی آرام و کوتاه به گوشم رسید که در گوشه کسی آرام میخاند زندگی باید کرد یادت هست چه آرام میگفت پچ پچ میکرد و نالان بود بیشمار قاضیان مرگ آمران مرگ در تعقیبش بودند او را جستجو میکردند ندای زندگی در خیابان شنیده شده بود و این قوم مرگ پرست که همه چیز را در مرگ می دید آرام نمی ماند آنان تشنه مرگ بودند حتی زندگی را از دل مرگ می جستند. ندای زندگی کفر بر اینان بود آری کفر همان زیستن است ندای دنبالدار جارچیانشان را در خیابان ها شنیده اید؟ در خیابان فرامی‌خوانند مردمان را به مرگ کفن به پوش به خیابان میآیند تا نداد دهند همه زندگی در دنیای دیگری است زندگی کجاست زندگی در میان لبان او خوشیده و پشمرد می‌رخسید جانی نداشت اما می‌رخسید زندگی عاشق بود به ندای شنیدن صدایش آرام و قرار نداشت او را دربند و به زنجیر بسته بودند اما او توان دربند ماندن را نداشت حال که پس از سالیان دراز در هست ماندن به زبان آمده بر جای ننشست افتان و خیزان با آنچه توان بر جانش بود به لبان یاغی نشست و آرام رخصید او اولین ندای مردمان بود که آرام به گوششان میخواند. فرمان رهبر آمده بود تا بی شمار دیگری را به مرگ فرا بخوانند و حال او بود که آرام در گوشه معبری نزدیک به من که به نگاه او چشم دوخته بودم زیر لب نام زندگی را زمزمه می کرد. او را فرا میخواند و مردمان را به ندای زیستن دعوت می کرد. اما مردمان او را پس زدند. با پشت دست بر دهانش کوفتند. ما زندگی داریم؟ زندگی ما در آیندهی دور، در فضایی مپوت، برقم رنجهای در این دنیا خواهد بود. هر درد آفیتی خواهد داشت و هر لذت زلتی پدیدار خواهد کرد. او را زدن و از میان بردند و زندگی را بر روی لبانش با پا کفتند. من در کنار او متحسن شدم. برای بیدار کردن زندگی به لبان شما و شما با سنگ بر لبانم کفتید. به هوای آن زندگی را از میان برید و حال مردمان در سوی زندگی مرگ را بزرگ میدارند. در میان لبان او و ندای آرامش بود که کودکی زندگی را از لبان او گرفت و کودکانه در میان بازی مدام برایش لالا خواند. زندگی خواب بود به میان بالهای کودکانه در زنجیر یکی از سربازان زندگی را دید و او را شکار کرد او را کتبسته به نزد شاه برد تا همه زندگی از آن او باشد او همه زندگی مرا میخواست او همه زندگی ها را میخرید و از آن خود میکرد چه معامله پرسودی خریدن زندگی و فروختن مرگ و چه طالبان بیشماری دارد همه در برابر بالکن رهبر ایستادند تا او با ندایی آسمانی و قدسی با بالهای فراخ و کبیر به پیش آید آرام دستانش را تکان دهد و بذر مرگ را به میان مردمان بکارد و آنان مست از آنچه دارند همه زندگی‌های خوشمانده بر لبانشان را به او فدیه دهند اوست که هر روز فر بهتر از دیروز در پی زندگی‌های دیگران برآمده است مثلا آن کودک که سرباز زندگی را از نزدش برد خاطره زندگی را به دل دارد او را هر بار یاد میکند و در ذهن به خاطرش آورده است او را بلبانش میکارد و این بار او کودک است او از این شراب رام شدن کمتر نوشیده و بیشتر بر خویشتنش تنش از یاغیگری و تقیان است سوار خواهد بود و آنگاه بر بال تقیان او را دیدم که فریادکنان ندای زندگی سر میداد می دوید و در میان کوه دست بر جانان جهان می کشید. از زندگی به زندگی می رسید و در آن حلول می کرد. به آسمان می رف و در این ورته رهایی پرواز می کرد. او را دیدم که فریاد کنان از برابرم گذشته است و مدام فریاد زندگی سر می داد. در روزی سرد و تاریک انگاه که کودک به پدرش از آنچه زندگی بود خواند و او را آموخت آنجا که دو دوش هم به پیش می رفتند و سرود زندگی می خواندند، مرک پرستان دانستند. به پیش ارباب رفتند. آی ای والا حضرت ای پدر آسمانی، کودکی یاغی و دیوانه از زندگی خوانده است. پدرش همه را از یاد برده و دیگر این بودن در میان علوهیت ما را به فردا زندگی نخواهد دید. ندای زندگی در گوش بیمار شاه شاهان تنین انداخت دانست که به فردایی دورتر این ندا همه جهان او را پر خواهد کرد پس تنها سر را به اشاره فرود پایی مرد سرش تا گردن خم بود که گردنش بریده شد حرکتی کوچک کافی بود تا دشنها به در آیند و فریادها کشیده شوند حالا باز هم مردمی را می بینم که در خیابان فریاد مرگ سر می دهند. همه فریاد مرگ سر می دهند. گاه بر قدرت و گاه در قدرت، تفاوت دنیایشان به میان تفاوت در پوستین های به تنشان است، وجودشان همتاست و هر دو فریاد مرگ سر می دهند. در میان فریاد های گوش همینان بود، که ندایی از فریاد جانگداز او شنیده نشد. بیس سربه چاقو به بهای گردنکجی از رهبر مرک پرستان در میان بریده شدن گردنش میخاند نام زندگی را. زندگی بر جای چاقوی بریده بوسه میزد و خوشخیال به عمق دانستنش از مر همه چیز را با بوسه هایش درمان میکرد. دیدم زندگی را. که در مزار کودک گردن بریده نشسته است و مدام ورد دوست داشتنش را تکرار می کند مدام می خاند. او عاشق من بود او مرا دوست داشت همتای بیشمار قربانیان دیگر مرگ پرسان، هر که در میان بریده شدن سرش نام من را برد نام عشقش به من را خواند و او بود که با بوسه بر گردن بریده آرزو می کرد دوباره در او حلول کند و دوباره به او بپیفندد برایش می که باید برخیزد باید دوباره به میدان بیاید بالا و پایین به برخیزد برخیزد و کودکی کند پدرش در کنار افتاد و زمین را رنگین کرد مردم ندای آنان را نمی شنیدند آخر آنان در حال خواندن آیه های مرگ بودند. آنان تلاوت می‌کردند این درد پرتکرار را. آنان را گوشی نمانده بود تا ندای پدر و فرزند را بشنوند. از آنان بشنوند دیگر زمانی برای شنیدن نمانده بود. همه چیز را از پیشتری دانسته و خوانده بودند. راستی نخوانده بودند اما میدانستند که میدانند. همین آنان را بس که دیگر دنیا نیازی به دانستن آنان نخواهد داشت پس آنان در میان فریادهای مدام پرتکرار عبادت مرگ کردند و هر بار مرگ را حوالتی به دیگران دادند و در میان فریادهای آنان هرگز شنیده نشد که کودکی ای برای زندگی سروده است زندگی نجوای ای برای او کرده است و پدر پیش از مردن تنها خواستش از مرگ پرسان و سال زندگی و فرزندش بود. هیچ کس هیچ نشنید. اما زندگی دست بردار نبود. او دیوانه شده بود. از پرپر شدن کودکی در آغوشش دیوانه شده بود. او را دیوانه کرده اید. زندگی امروز بیمار است. تنها و نالان در پی گذران است. به هر آسمان و ریسمانی چنگ خواهد زد. تا زودتر گذر کند. تمام شود. بگذرد، به بطالت شود و از او هیچ باقی نباشد او دیوانه است، از دنیای ساخته انسانی دیوانه است ندای دنبالدار این کودک در فغان را شنیده اید؟ کودکی نه ساله که در کنار پدرش سلاخی شد زندگی هر روز بریده شدن سر کودکان را میبیند؟ این آین خونبار را نظاره کرده است و هر بار این جنون را به چشم دیده است. هر روز فرزندش را تکه تکه می کنید. کودک کشانه بیمار در پی خون کودکان می گردند. چرخ دوار و گردون بیمار آدمی در گردش است. هر بار زندگی را سلاخی می کنند و از مرگ کام میگیرند. در آغوش مرگ با هم آغوشی به او به زندگی خیانت کردند مرا در میان همین میدان دفع کنید من تا تغییر آدمیان تکان نخواهم خورد در جای خواهم ماند تا دنیا را دگرگون کنم این تحصن از برای جان است برای آزادی است برای برابری است برای قانون آزادی است این تحصن برای خلق دوباره انسان است سنگ اول با فرمان محارب خاندنم به پیشانی خورد دومین آنان را از برای کفرم زدند و به کررات کوفتند که ندای زندگی را کسی در جهان نخاند اما زندگی در جریان است به مثال از هم جدا کردن دریاست همه چیز دانان دریا را قسمت کنید آن را از هم دور بدارید باد را به اثارت ببرید بیایید همه چیز چیزانان میدان در برابر رویتان است بیایید تا به جنگ طبیعت روید عمری است که با به بند در آوردن طبیعت جانان جهان در ستیز با زندگی بر لیک این خون در جریان ورکها این باد در حرکت و این دریای خروشان روزی به مسیر خواهد بود روزی جهان را دگرگون خواهد کرد که همه اینان به ذات و درون سینه هاست حال باز هم به مثال آنچه کردید و به طول این سالیان مرگ را پرسیدید به میدان بیایید و خشونت را آیین کنید. دین را فرا بخوانید تا دوباره همه را به قبرستان جهالتش دفع کند. همه را در اعماق سفاهتش هضم کند و تحمیق خلق آغاز شود. اما آب در جریان است. باد اسارت ناپذیر و به آین خونبار و دیوانه عمری را به خشونت سهر کردید و این صبح نوی بخش برخواستن است آری زمان خواهد برد نسل ها باید بیدار شوند و بدانند اما ما را به صبر فرا نخوان به بیداری به میدان ببین و در خود من را آرزو مکن به مثال آنچه دریا طوفان کرد و مدام به گوشمان خواند به جریان آمده بیدار خواهد کرد جماعت بیمار در خواب را به خواب ماندگان را به میدان خواهد نشان تا بیدار کنند توفان را آتش خاک سر را شعلهور خواهد کرد به ضرب ایمان قلب‌هایمان و حال بنگر ماندن در خیابان را بنگر و به نظاره بنشین بنشین و ببین که تحسن در خیابان نوید بیداری خواهد داد هر رهگذره در عبور باری خواهد خندید باری تحقیر خواهد کرد و باری خشونت را خواهد خواند. اما آنگاه که زندگی به لبانش بنشیند انگاه که آزادی بر شانه هایش منزل کند آنگاه که برابری در گوشش دهد او را در بند نخواهی دید او در میدان و فریاد زنان است. او برای تغییر به میدان خواهد بود تا همه چیز را دگرگون کند و این سیل خروشان هیچ صد و توان در برابر نخواهد داشت. حال در آن روزگار خاموشی ندایی خواهی شنید کوتاه، بیجان تنها سطحی و دردالود لیکن این ندای آرام رام شدگان است. آمدند زنجیرها را برکنند آمدند تا ها را به کنار بزنند و فریاد برآورند در میان لبان او زندگی آرام آرام میخواند و از درون حنجره نالانش تقیان خیشتن را میدید. او را به بند درآورده بودند او را به بدنامی کشاندند هرچه الفاظ الفاظ بود را نسبتش دادند تا به اعماق بماند هیچ ندایی سر ندهد آنجا که آمد آرام و خجل بود او را می راندند او را به خشم می آلودند او را به بی بندوباری نسبت میدادند. او را هرج و مرج طلب می گفتند او را بی اراده و بی نزد نشان دادند و اینگونه بود که نخوص بار در برابر تحصنم آن دختر کم سن و سال آنجا که تقیان درونش از میان لبانش برون تراوید و به وسال زندگی در آمد دختر دیگر رام نبود پدرش بود شاید یکی از سربازان شاید برادرش و یا شاید یکی از هزاران مردان موهایش بود شاید پوسین و شاید گفتنش نمیدانم چه بود از من دور بود اما من تقیان درون سینه اش را میدیدم من وسال زندگی را با او دیدم و فریاد زدنش را شنیدم او دیگر بر جای نبود فریاد میزد به سطوح آمده از بیداد در برابر بردگی ایستاد شلاق نخستین را خاطرت هست آن نخستین دست در برابر آنکه شلاق را از دست جلاد گرفت آنکه شلاغ را پاره کرد صدای جاندار او بود که زمین و زمان را در هم میکوفت فریادکنان به پیش می‌آمد و در برابر مزوران می‌هیستاد حالا آمدند تا او را بدرند و درندگی خیش را به تغیان در جان او نسبت دهند اما تغیان ساکت و آرام نبود او در جریان و به پیش بود در میان جان همه حلول می کرد او با سرعتی وست در جریان بود و به همه جا سرک می کشید هر جا زندگی را می دید به درون او حلول می کرد تا آنجا از است با تعم بودن او معنا یابد و به پیش رود بی او زندگی بیچسب بود تنها و نالان بود بی او زندگی همتای مرگ بود هاری آنان توقیان را به بند درآوردند. و به نبود او بود که اینگونه مرگ را به عوض زندگی به همه فروختند در کنار خودم و در برابر این تحصن اولین ندای از توگیان برخاست و فریاد کنان به لبان بیشماری فرو نشست اندک بود اما بی همتا در پیش بود مرگ پرستان را کلافه کرد، آنان را به ستوها آورد و خشم را در آغوش گرفتند از دیربازی داستانهای طول و دراز از بودن تقدان و با هم کردند تا با هم در هماویزی این دو به آنچه که مقصود از جنونشان بود دست یابند و شاید دست بردند اما بیداری نزدیک بود از همه بیشتر به نزد ما و در کنار بودن من من امروز آن دیروز تنها نیستم امروز بیشترانی در کنارم خواهند بود برخی را زندگی بیدار کرد و ادهی را توقیان فراخواند. اما بیشتران در کمین این بوده و باید که باشند از میان اوراق پیرمردی پیر مردی جستم که تنها نوشته بود آزادی بیان که آن را زرق و برقی دهد بیان که برام آن بیاویزد و آن را به خورد دیگران دهد او تنها نوشته بود آزادی آزادی که معناگرش تو بودی تو آن را معنا بخشیدی و دستاویزان به آن تراب اسارت پردند بر جسم آزادی حک شده در میان اوراق جانمان نوشتند آزار نرساندن آزار نرسان و هرچه خواهی کن این را شکارچی می گفت او آزادانه آهوی را شکار کرد و شادمانانه در راه خانه چند آزاده را دید آخر آنان آزادی را در میان آتش کباب آهو دیدند و به چند ضربه چاقو شکارچی را دریدند و کباب کردند نمیدانم. شاید شکارچی را خوردند شاید هم آهوی در دستانش را به هزینه مرگ او و حال آنان آزادند لیک جهانی در اسارت آنان و این را در میان دهان آنان شکارچی به سیخ کشیده شده می‌خواد آزادی آزار نرساندن است اما دیورویان رویان خودپرست مرگخا هر بار خواهند خواند و هر بار تکرار خواهند کرد آنان آزار میپذیرند و آزار نمی‌شوند حالا نداهایی زیبا می خانند. مدام به آزادی آویزانند برایت لالای آزادی گفتند و برایت از خوشی ندای آزادی میگویند. گویند قربانگاه در پیش برابری را به دار ویخته است آزادگان برابری را سغت می کنند ندا هم میدهند، آی مردم با آزادی ادالت را خواهی جست؟ آی مردم هر از برابری گفت آزادی را لگدمال خواهد کرد حالا که آنان میدان دارند آزادند آزاد در میان رویا مثال همان شکارچیان شکارچی آنان آزادترین آزادان جهانند بی ادالت و برابری مثلا روزی قدرت در اختیار است و او آزادی خیش را در خوردن آهودید مردمان این آزادی را در خوردن شکارچی دیدند و مردمانی آزادی را در کشتن دیگران بی در پیش آزادی برای قدرتمندان است برابری را به درک خاندن تا آزادی میداندار باشد آزادی نالهکنان ندا می داد که من توهی از معنا خواهم بود بی‌داشتن برابری من و برابری با هم معناگر خواهیم شد بنگر به برابر خانش و آزادی را در میان آنان ببین که از برابری بیشتر سهم بردند آنان که رونق به خانه بردند و ضرب اختیار داشتند آزادان جهان ما لقب گرفتند و این گونه بود که هرچه از آزادی در میان بود را برای خود کردند آنها آزاد و جماعت بیشماری در بند آنان درآمدند آمده بی برابری، آزادی بی مناست. و دوباره آنان که ریشه را نخواهند دید مردم را فرا می به آزادی. آزادی برای خیشتن در اصارت برابری و در اختیار زور پرستان و قدرتمندان. راستی امروز هم رهبر آزاد است. دوستانش هم آزادند و ما در اصارت. شاید ادهی به خیابان باشند تا آزادی را خود تصاحب کنند و آنان را به اسارت برند. آخر آزادی بدون برابری باز هم اصارت دیگران را خواهد ساخت. هرچه خواندم را در میان زندان نگاشتم. در تحصون و در میان همان فریادها، در میان همان سنگ ها، آنجا که ندای زندگی در لبانم فریاد براورد، به تویان نظر کرد و با وسال آزادی و برابری به پیش رفت. دانستند که این ندای بیدارگر دوران است. همه را به اندرون وجودشان بیدار خواهد کرد و اینگونه بود که کمر به همت بستند تا مرا به حث درآورند. به خیال مرگ پرستان اسیر با به بند درآوردن و کشتن و مرگ بیداری خاموش خواهد شد. دانش و خرد کور خواهد ماند اما همه در سکوت خواهند ماند و دوباره خاموشی جهان را خواهد گرفت. نمیدانند این ندای برآمده از لبان زندگی در جانها ریش دوانده است از کندن شاخهی هزاران شاخسار را پدیدار خواهد آورد به مثال هرس درختان است بابان با داست در دست درختان و جان را رام کرد و تراویدن بیشمار را دید شکارچی پرندگان را کشت و به خیالش پرواز را خاموش کرد و حالا کوچ پرندگان در پرواز را به نظاره نشسته است این بذر از بیداری در زمینها هزاری غنچه را بیدار خواهد کرد و خواهد رویاند. همه در باغ زیستن پرورانده خواهند شد. لیکن باید گفت آنان را فرا خواند باید ایمان ساخت و از آرزو نداداد، باید خواستن را فریاد زد و خیابان را از آرزو پر کرد. دوای درد این دیوانگی و جنون این مرگ و اصارت خواستن است. تیر از کمان در آمده به قلب جوانه ای ای تازه را رویانده است او به در درخیش از برای یک گل چیده شده هزاری را پرورانده است آن کودک گردن بریده به دریای خونین جهل پرستان را به خاطر داری؟ او نفس زندگی را فریاد کرد و حال در کوچه همو بیشماری از کودکان به میان بازی کودکان فریاد زندگی سر میدهند. از میان لبان دختر یاغی فریاد برابر آمده از توگیان ریشه کرد و حال یاغیان به میدانند و من در سیاه چال آنجا که دیوار تحصنم را شکستند آنجا که به سنگ سرم را شکستند سری بارور را میان دیوارهای شهر به جا گذاشتم در میان میدان تحصنم ریشم را کاشتم تا به فردای درخت باروری ریشه دواند و مدام حدیث زندگی سر دهد برابری را فریاد زند و آزادی را به طغیان برجان فرا بخاند این ریشه در زمین مانده است حال مرک پرستان، مرا مراکندند و ریشه در خاک هر روز در حال تراویدن است هر روز در حال جوان زدن است و هر بار در میان زندان دوباره خواهم شد دوباره از نه هزاری را فرا خواهم خواند و همه را یک صدا به میدان خواهم کشاند. بدرید این جسم زخمی و تن دردمند مرا که روح هم دمیده در دنیاست. کلام مثال آبی دریا جریان است و ندا خواهد داد و حال زمان گفتن است. زمان بیدار کردن است زمان ساختن است زمان آرزو ساختن است، سیاهی و سپیدی را کاشتن است. امروز روز ایمان است. کتاب شهر سوخته اثر نیما بخش سوم به گردنم تنابی آویزان است میکشند مرا کشیدند من تناب برگردن دارم نمیدانم از چه روی همه مردمان را با تناب کشیدند. در جستجوی شبان برآمدند. ندایی از دیرباز گوش آشنا و پرتکرار برایشان لالا میخواند خاند شدگان را فرا میخواند همه در جستجوی تناب به گردن همدار می بافند او را دیدم می دوید در جستجوی سری برای درمیان تناب بردن بود کسی را به دام انداخت دیدم که مستانه فریاد شادی سر و در میان همین بزن بود که گردنش را در تنابی اسیر کردند نه اشتباه بود در میان شادی دورترها آنجای که شادمانان او را پذیرفتند آنجایی که او را به پای فرا خواندند شاید دورتر آنجا که او خود را شناخت او را خود بودن آموختند که خودی نبود و آمال دیگران بود آنجای که چشم را گشود تنابی به گردن داشت نمیدانست در تغیب کیست. شاد برای به دامندااختن شکارش میدوید بیان آنکه درد تناب برگردن خیش را بداند. حس کند او با خبر نبود که او را کشیدند تنابش به دست تنابداری برگردن بود که قولی عظیم او را میکشید. خود را به بلندای کوهی رساندم و رشتهی تناب را نجستم تنابی طویل به دور دنیا بود. همه هم را و شادمان از این که شاکش بودند. طله برای بازی بود. برای شادی بود. برای فراموشی بود. از یاد می بردند حس تناب برگردنها را. باید که بازی به میان بود و تناب برگردن من است. این بازی برای فراموشی است. برای از یاد بردن است. نباید ببینند. نباید بشنوند. شاید به ندایی تناب برگردن خیش و افسار بردهان را دیدند ندا را بلند فریاد کردند و صدایی را در خیش خوراندند دیگر صدایی در میانه نیست همه مسکوتند هیچ ندایی را توان شنیدن نیست جارچیان خوشصدا فریاد میزنند و تنابشان کشیده شده است. کشیدن تا بکشانند نه کسی نمی میرد. تنها تنابی کشیده خواهد شد به مثال تناب شکارچی اما بیداد از آن روز که مرا بی تناب در میان میدان شهر دیدند در شهر سوخته ای که تنابها را آتش می زدم آخر من از بلندای کوه ریسمان برگردنها را دیدم دیدم و فریاد زدم صدایم را کسی نشنید از کوه به پایین آمدم تا به صدای رسا آنان را فرا بخوانم. لیک آنان از ندای بلند آسمانی پر بودند و هیچ توانی برای شنیدنشان نبود اما ریسمان برگردنشان را به همه نشان دادم تناب را بر پیش گرفتم و آنان مرا ندیدند ندیدند که چگونه عمری ریسمان به گردن در جستجوی گردنی برای بدار کشیدن می گردند. از کنارم گذشتند بی مرا بنگرند اما طولی نکشید که به تمسخرم ایستادند ایستادند و مرا به تأخیر از خود راندند چیزی برای دیدن در برابرشان نبود. تنابی را نمی دیدند. راستی می دیدند. آخر هر کسی دیگری را به بند درآورده بود. او را می و شادمانانه از ندانی او لذت می برد. او اسیر و اش بود. من در خیابان مانده به تحصون تناب در دست را نشانشان دادم و حال آنان بهتر دانستند که مغفرت در خموشی است. اولین آنان که ریسمان بدرد، برده خود را از دست خواهد داد پس همه می دانستند و خاموش بودند آخر پاداش در خاموشی بود اما فریاد من به تمسخر آنان که در خود فرو ننشست باز هم با دستانی آزاد پیان که رهایی را به بند درآورم آورم ریسمان گردنشان را نشان دادم خاطرم نیست کی بود شاید آن روزی که تناب در دست و افسار بر سیمای دوست را نشان دادم تأخیر به جنگ بدل شد این بار آنان عافیت را در برابر فریاد من دیدند آنچه ساختند را در میان آب در برابر دیدند وای که اگر همه ریسمان برگردن خود را می دیدند، چه می شد؟ هیچ آسوده باش ریسمانی به دستشان دادند به لذت اصارت دیگران خاموش باشند پس همه خاموش بودند وقتی که فریاد زد را خاموش کردند من شکار را برهم زدم فریاد کشیدم و قوم پرندگان را پرواز دادم آری فریاد من بود که شکارچیان را غضب کرد حال آنان گردنم را به ریسمانی بافته برای یاغیان در بند بردند و میدانند من برای کشیدن نیستم نمی توان یاغی را دست آموز و رام کرد میدانی همه برگردن ریسمان داشتند و معدود بالا رفتند. بیشتران آن کشیده شدند و دل به آنچه ارباب خواند خواندند. اما تاقانگران را شکار با دنبال کردند و حال آنان را به آسمان میبرند. آنان را به بالا میکشند با ریسمان برگردن. از آن روز نخست از آنجایی که در دل خیابان تحصن آغاز کردم و ندای ریسمان برگردنها دادم چونجا که از کنارم گذشتند، چونجا که به تمسخرم نشستند و چونجا که به جنگم آمدند، همیشه و همیشه می‌دانستم ریسمان برگردن را دیده بودم. من ندا برای برکندن ها دادم و دانستم این تناب برای گردن من بافته شده است. به دل و درمیان بازی خواندند آنکه در تمنای نابودی بازی در آید به ریسمان مرگ سپرده خواهد شد. اما این را نخواندند که زندگی برای آزادگان بیره بودن و فریاد زدن مجالی نیست. بهانه ای نیست. اگر تناب به گردن یاغی بود او فرا خاند مرگ را و پروا می رنج را. او را به آویختن چه کار؟ او آمده تا برخیزد و ریزمان ها بدارد. ریزمان برگردن تا به کشیدنش نیست. از آن روز نخستین در تحسرون فرا خواندند که این ریسمان بگردن آلت قطال است. باری یاغی را کشت و باری شکار را زنده کشت. رها از تناب و ریسمان ها، رها از درد و هرمان ها، رها از فرمان و فرمان ها، ای ساده در خیابان به طول بودنها، این ندای یاغیان است. در کمین بد احتان است، این صدای بی است. فریاد کن، ریسمان به در، بر هم شکن و از نو و دوباره برخان سرود زندگی را. به تحسن کوچکان روزگاران من آمدند بسیار یا دوره هم کردند. آن هم به کنارم نشستند و ندایم را زمزمه گفتند. ندای آزادی بود که مدام میخواند ما جهانی آزاد پدید خواهیم آورد. جهانی آزاد که در آن همه توان زیستن خواهند داشت. و باز ندای زندگی که آغاز شد دیوانگان را جریح کرد. تناب کشیدند و بیشمارانی را قطار کردند، آمده بودند تا ما را دوره کنند، به تخیر و توهین در هم بشکنند و ندای آزادی آنان را دیوانتر کرد. انگاه که تناب میکشیدند جماعت هزیانگویی که دیوان خوی بود را بیدار میکردند، میآدند تا به دریدن ما، آزاد باشند و آزادی خیش را به در برند آخر می دانی آزادی آنان بی بر تو بود ای زیبای شیرین برجانم ای یک تا احساس بیدار مانده از کودکیم تو با من و در کنارم بودی از کودکی همراهم هم بودی تو زیبای در جهانم بودی تو بر من اولین نقمه ای سادگی را خواندی. آنجا که فروشندگان خیشتن، آنان که تناب برگردند به دنبال ارباب میگشتند تو را خار خواندند. کودکی را به کودکی هم هر راج گفتند و او را بی پروا در آتش خشم خود در سراب راندند. خاطرم هست، همه را در یاد دارم، آن اولین حضورت به کنارم را از یاد نخواهم برد، چه آرام مرا برخیش فرا خواندی چه نجوای گوشنوازی برایم سرودی و همه آن را شنیدند اما افسوس که اینان کودکان را از کودکی تناب میکنند تناب گردن آنقدر کشیدند که صدای نازدار و آرامت را نشنوند تو میخواندی خاندی خونیا می کردی اما افسوس که بر گوش کودکان از فشار تناب هیچ دیگری را نشنیده است اما من تو را نشنیده که دیدم ندیده که لمس کردم من تو را زندگی کردم تو از من شدی در همان روز کودکی که ندای خیشتن میخواندی، اگر کودکی را حق خوردند اگر بر دیگران دادند و او را گوشهای رها کردند اگر او را به میان راه ندادند و آزار بردند اگر او تنها و بی‌کس اگر عدر را در برابرمان به تناب دار سپردند و کودکان تناب برگردن والدان کشنده بر خارها من تو را دیدم که میخواندی. سرور بودنت، سرود ماندنت، سرود هم را با آزادی شنیدم راستش را بگو تو برادر آزادی بودی؟ تو خواهر رهایی هستی؟ میدانم این را گفتم تا تنابداران را به تو آشنا کنم تا آنان که به رنج تناب گردنها صدایت را نشنیدند بر من گوش سپارند تو خود آزادی هستی برابری است. آری او خود آزادیست بی او آزادی معنایی نخواهد داشت همه آزادی درون اوست و اوست که از آن بودن و کودکی برای مدام میخواند و همو بود که در نهایت آزادی را به من فهماند حال بگذار دیوانگان مست معنا بیایند و برایمان ببافند که آزادی والاتر از توست. آری تناب برگردن و دست آنان را دیدم. گاه کشیده شدند و گاه کشیدند و مدام آنچه برایشان خانده بودند را تکرار کردند. خانده از ارباب در دور دست را می و تکرار می و خیشتن را فاسدالود بر تمام معانی بیمنا آویزان کردند اما تو باز هم آزاد از خیشتن خواندی. خواندی که برابری و آزادی یکتاست بی هم بیمناست از میان همان جمع آزادگان که تو را از کودکی دیدند و ریسمان پاره کردند مرا بردند در میان همان تحصن آزادی بخش آنچه صدای بی صدایان در بند بود آمدند و مرا تناب کردند ریسمان دیربازانم را دیدند می دانند که یاغیان را سر سازش با ریسمان نیست تناب را می و آزاد فریاد می میدانند می دانند که به ندای خیشتن معنای آزادی را برنار می تا تاب ایستادنم نبود نمی توان مرا مهار کرد مرا رام نخواهید دید، من فرزند خلف تقیان و ما را چون طوفان در راه خواهید دید، مرا چون باد در آسمان خواهید دید، مرا در حرکت و چون جوی روان خواهید دید، تاب ایستادنم نیست و ریسمان میبافند، تنها آویزان کردند و در خیالشان بارها مرا به دار آویختند، اما ای خونیاگر تمام کودکیم ای ندا و معنای آزادی ای آشغانه دورانها می دانند که من از تو زاده شدم میدانند چون تو بر همگان رسوخ خواهم کرد میدانند دانند کسی را تا به ایستادگی در برابرم نیست ببینید بر تناب دار هم دوباره ندایی بر آسمان است آزادی را می و می بینید برابری بر جانم را برابری را فریاد می‌زنم زنم و آزاد را دیدند دیگر این سیل خروشان تحمل ایستادن نخواهد داشت به دار بیاویزید همه را دار بزنید تناپای در دستتان دیگر قابل کشیدن نیست دیگر مغمونان در بند را نخواهید دید که این فریاد بیداری بخش برای همه جان هاست. شهر سوخته را بیدار خواهد کرد همه را به میدان خواهد خواند همه را به میدان خواهد نشاند او فریاد است در خروش پر جریان است او آمده تا همه را همراه خیشتن کند در برابر این سیل خروشان نایسید که او برابر همه را به میدان خواهد کرد در میان جوخه های دار در میان ریسمان های درده است در میان عقده‌های خیشتن، بست های رستن، در میان خواندن بیرفتن، در همه جا تکرار خواهد شد. تناب را بیدار خواهد کرد تا به نهای ها خیشتن بدرند که آزادی آنان را نیز فرا خوانده است. بر جوخه های دار آنجا که بدمستان دیوان خوی از کردن خود خوشاهنگند، آنجای که بر جنازه های بردار آویزان ماندند که بیشتر رنج برند در میان همین آویزان بودن های دیدی که ریسمان پاره شد دیدی که بیپروار راهی از چاره شد دیدی که دوام نیاورد و آزاد هم پیاله شد حال میدان فردای آرزوها را ببین آنجایی را ببین که تناب و ریسمان را آدمی از گردن بنهد و فریاد برآورد دیگر گردنی برای دار زدن نیست برای مهار کردن نیست برای رام داشتن نیست دیگر همه پرتغیان و سرکشن ریسمان بر گردنم از کودکی و درمیان بودنم آنجای که والدان آن را به گردنم آویختند از آن جای بر او خواندم بر او لاله تو را خواندم خاندم که تو برایم هموار از خیش گفتی تو مرا به جان فرا خواندی نگاه هم دادی و دیدم که همه برابرند دیدم که همه یکتا و یکسانند دیدم و بر ریسمان در گردن آن را خواندم آن بود که در برابر والدان ایستادم از آن گوت اورانی سیراب کنید همه این را می خاندند. اما ندای من بلندتر بود من آن را خواندم و به تعقیب آنچه من خانده بودم دیدم که بیشترانی از کودکان به میان آمدند. گاه با قوطی در دست که برابری برای آنان خانده بود. می دیدم. والدان در کمین را می دیدم که ریسمان می کشند و آنان را دور می کنند. اما ندای آزاد در جانشان بی به پیش می رفت. می رفت. و قابل مهار کردن نبود. او راه در پیش را به سرعت میدوید و والدان به آویزانی حاکمان دست در دست هم ریسمان را کشیدند آن را کشیدند تا کودکان را در بند و آرام نگاه دارند هربه برای رام کردن بود و یاقی فریاد میزد ریسمان را بالا بردند و بر دستانم کفتند ریسمان را فرا می خاندم که اونیست چون من طالب زندگی است شاید باری سهمی از قوت بود اما در خیابان و به دل شهر گاه سخن از فروش بود و مروتان مست ریسمان آنجا نیز دل به دل خالقان دادید دل در گروه حاکمان دادید راه را به راه قاسدان دادید که ریسمان را کشیدند ریسمانتان را کشیدند ریسمان به دورشان بسید و وای ندیدید که کودکان را فروختند آنها نقوت به سر بازی و بازماندن که مرده اند از بیبازی رازمندان. در خیابان پرسه میزنند و گاه تنشان را می درند. گاه آزارشان را میخرند. والدی با ریسمانی در دست او را واگذار به خالقی در دور دست کرد و حاکمی را دیدم که ریسمان کودکان را به بالا کشید. چند بهار را دیده بود نمیدانم در کوتاه زمانی ریسمان برگردنش را کشیدند و او را بی هوا بی هوا کردند ریسمان برگردنم دید که فریاد زنان تا به ایستادنم نبود این نابرابری را عط خواندند آن را فروختند و جماعتی را به دورش جمع کردند مدام برایشان از پسی دیگران و رستی خیشتنشان گفتند عذاب و رنج را هموار به دوششان خوراندند و حال آنم بودند که به دنبال دیدن رنج دیگران در صف میخندیدند توان کشیدن بر جانشان نبود و از دیدن کشیدن دیگران کششودن را فرا خواندند ای ننج بر این رسم بی آر خاندنها بی آر به دنبال هم دویدند تا ببینند گاه تنابی بر گردن کودکان در بند را گاه خریدن کودکان در رنج را گاه کشیدن بر آسمان کودکان دردمند را دیدن و ریسمان برگردن را بوسیدند و دست حاکمان را لیسیدند و پای خالقان را بر زمین کشیدند جای پای او را تقدیس بر تقدیر خود درود گفتند و حال دور زمانی است که از دیدن رنج دیگران آسوده خواهند بود بی رام و در بند ریسمان می تراشند و بر آسمان می بافند ریسمان برگردنم دانه است که مدام برایم خوانده است آزادی یک تا با برابری است بی بودن هر کدامشانان دیگری است، آخر همین ریسمان برگردنها در نهای آزادی آزادند اما برابری را خوردند آن را بلعیده و شادمانانه همه آزادی را برای خود کردند بی برابری، آزادی بی‌معنا است من این را دیدم مدام آن را شنیدم ریسمان برگردنم هم آن را شنیده است و با من خواهد خواند حتی در میان جوخه ها با من خواهد بود او دید که صدای ترکیدن قلب کودکی در تصادم دست ثروتمندی بر صورت پدرش بود آن بمب صوتی را در قلبش ترکاندند ریسمان پدر را کشیدند و او دید که با ریسمان کشیده او را به زمین می‌کشند. در برابر خیشتن آویزان می کنند تا از این هقارت خیش را بزرگ دارند و او و من و ریسمان و آزادی همه و همه او را دیدیم و فراتر از آن رعد صدای دردآلود آن چک را شنیدیم کارگران را به پیش فرا می تا ریسمان برگردن نهند آنان را آزموده تا گردن پیش ند و در برابر قالبان خازانه گردن گشایند. آنان را آموخته تا در این سرای دهشتناک خیشتن را مجاب به بودن آنان کنند. اینان سالیان درازی است که همه را به پیش فراخوااندند تا آن کنند که از دیرباز بر گوششان خوانداند. کارگری در پیش است، در پیش روی تو بوسه میزند بر ریسمان برگردن، ریسمان را جسته و آرزو می کند تا آن را برگردنش بگذارند و او آرام از نوازش ریسمان برگردن هاست زنجیر می خواهد تا بر پای و دست خویش کند آنچه باقی از زندگیش در پیش مانده است او پرورانده تا در پی شکارچی خود باشد اینان درس های بسیار دادند و بر این درسها ها همگان را آموختند تا شکار خوب باشند شکار در پی شکارچیان است قربانی در پی زالمان است و مظلوم به فریاد در آغوش جانگیران است ریسمان برگردنم هم همه را دید و خیشتن شکافت خیشتن را درید تا دیگر برگردن آزادگان جای نماند و حال نمیدانم چه کسی را فراخواندند. شاید یکی از کارگران در بند بود شاید یکی از شکار و مظلومان بود نمیدانم که بود اما با تقلای بسیار بر جانم ریسمان را به گردنم آویخت. شاید همو بود که با ضربت بسیار بر چهارپایه ها کوبید. نمیدانم چه تفاوت که چه کسی را فراخواندند. آنان نظمی را در این جنون فرا که به تکرار چند بارش همه را در خود اسیر کرده است. من از دور دستی بر قلعه ای ساده و میبینم بیشمارانی را که گردن نهاده در آرزوی ریسمان هند. اما ما که ریسمان ها را دریده ایم. ما که در میدان فریاد میزنیم ما که در تحصم بیپروا به میدان در آمده ایم را چه شد که ریسمان دیگران را در دست گرفتیم چرا پس به تقلا در جستجوی جستن ریسمان برگردن آنانیم دیدم آزادگانی را که در پی جستجوی رستن بر جایگاه قدسی هم می میدوند و میجهند تا خیشتن را به سودای آنان دلخوش کنند دیوانه هم کردند تنهایی بر جای مرا خوش کردند و در جستجوی سری در میان ریسمان خود میگردند به این سو و آن سو دویدند دویدنهایشان را دیدم می بینم که چگونه بی به پیش میروند تا سر تازه‌ای برای ریسمان سالیان دراز در بند خیش بجویند اما اینان آزادی را در نیافتند و مدام آن ندای پیر پرتکرار را برای خیش خواندند و آزادی را بیتو معنا کردند ای hey برابری کجایی تو آنان را از درس خیش فرابخانی آنان را نوید دهی تا همه آزاد باشین تا همه بدانند بی تو هیچکس آزاد نیست. همه در صدای آزادی دیگران را به بند می کشند. برابری خسته و نالان است. شاید او را هم به ریسمان در گردن در خیابان چرخاندند. آری در میان شهر سوخته او را می گردانند و در میان آدمیان چرخ می دهند. میچرخانند تا همه او را در این جامعه ژنده ببینند و به هراس گردن نهند گردنهای آویزان آنان در میانه است روزی گردن خیش را به پیش خواهند داشت و روزی در پی گردن زدن بر این بوی متفن را تامیان افکار آن که آزاد بود تراوش کردند و آنگاه که آزادی را به دار آویختند آزادانه برایشان از آزادی گفتند حالا بیشمارانی در راهند تا دوباره خیش را آزاد کنند آنان دیگر در راه رسیدن به آزادی برابری را نمی خواهند. آنها تنها تکاپوی جانشان را برای درهمگیری آزادی به خرج می دهند آزادی که برای آنهاست تنها برای آنهاست به قیمت دربند بودن آخر آنان خیشتن تن بیجان برابری را به دار ویختند خیشتن به گردنش ریسمان انداختند و در میان شهر در بین کارگران، معلمان، زحمتکشان، رنجبران، چرخاندند تا به همه بفهمانند برای تمنای آزادی باید به راه آنان بود باید برابری را لن گفت و در آرزوی تهمانده آزادی آنان بود آنان را چه کار که به آزادی خیش هزاری در اسارت خواهند ماند آنان را چه سود که بیشمارانی در زلت لذت آنان را خواهند ساخت آنان را این گناه موختند که در تمنا باشند همه چیز را تمنا کنند و برابری تمنا کردنی نبود ندای خوشش میساخت. ساخت می ساخت جان بسیارانی را که صدای وجودش را داشتند و من ندا دادم آنگاه که ریسمان برگردنم خود را درید من در میدان شهر سوخته در بین آدمیان ندا دادم. از دل برابری خواندم و تمام معنا را در میان همان برابری جستم که آزادی را خواهد ساخت. بیو آزادی هیچ است و این هیچ بیشمارانی به دور خیش را قطار کرده است و من دوباره بر آنان میخوانم و حال در میان رنج و درد به کنارم خواهند بود. آنانی که برابر به جانم جانند و برای برابری خیش می جنگند رئیسمان در دست کارگری بود که تمنای آزادی را از والانشینان می کرد شکارچی به شکارش نزدیک نشد و آموخت تا شکار شکاری دیگر کند و حال من در اسارت شکار درآمدم. این شکار را رییسمان برگردن همتای برابری به شهر میچرخانند تا کسی طالب آزادی نباشد و همه تمنای آزادی کنند ما را با تمنا سر سازگار بودن نیست و آن دیربازی است که این ندا برآمد همه را به خواستن دعوت کرد حال حچ درد فروشان کنند و میدان را به قبضه درآورند دوباره ندای پرتکرار ما در میان است ریسمان در دست کارگران برای کشیدن دیگران به کناری خواهد رفت آنجا که او خیشتن را به فردای بریسمان خواهند دید آنجایی که سر این کلاف پرتکرار را در دست شکارچی خود خواهند دید آنجا که این ریسمان در دست فخ فروشان را به اشارت خواهند دید آنجا که ریسمان بگشایند و راه تازه‌ای را پدید خواهند داشت اما حال گردن من در دستان اوست. شاید در دستان کودکی دردمند. ای لعنت به این کینه فروشان. ای ننگ بر این دیوان خواهان که همه را دیوانه کردند. ای ننگ بر اینان که شکار را به تغییب شکار تازهی فرسادند و حال در میانشان آزادی تخفه میکنند. از بالای غل همه را میبینم. آن خستین فریاد را دیدم و ریسمان از همگسسته را به چشم دیدم لالای آرام برابری را به گوش بیشماران به نظاره نشستم و فریاد بلند آزادی را به گوش شنیدم شاید همین فریادهای بلند آزادی است که ندای برابری را کسی نشنیده است آری این دیورویان رویان برابری را بلیده ایده که اگر او به میدان آید هیچ از آزادی در اصارت ما برای دیف باقی نخواهد گذاشت آنگاه که در میان زمین و آسمان در چرخ بودم آنجایی که تعادل در میان چهار پایه ها به رقص در آمد آنجای هم در نظاره شما باز هم خواهم دید خواهم دید که بی پرواه این بار آزادی و برابری هم آغوش هم در میدانند؟ دیدم که این دو عاشق هم را در آغوش گرفته و برایمان لالا میخوانند. آنان آمده تا در خویشتن بپرورانند فردای زیبای همه را. فرزندشان را در میان همان رقص آتشگون و عاشقان دیدم. فرزندشان آرامش بود. او آرام به میان من میامد. ما از درون آتش ها برخواسته ایم ما سالیانی را در جنگ بوده ایم. او دیگر نخواهد هیچ کدامین این رنج ها را ببیند او در میدان است او فرزند خلف این عشق پاک است او فردای همه ماست آری آن همه در بندان آزاد خواهند شد همه در کنار هم خواهند بود و ریسمانها همان گونه که به رقص در آمدند خیشتن را خواهند درید و هیچ از خیش باقی نخواهند گذاشت. دیگر کسی گردن نخواهد آویخت اما حال زمانه جنگ است، هنگامه میدان است، دمی برای آگاهی است و فریاد زنان با هیچ صدا و ندا و نفس فریادم را شنیدند. از میانتان مرا جستند مرا که همه ریسمان ها دریده بودم ریسمان برگردن آویختند همتای برابری و آزادی به صلاح خانه بردند تا هیچ ما را نبیند آخر من هنگامه فریاد شمایان بودم من خیشتن در درونتان بودم مرا دیدید به مانند برابری در جانتان مرا نیز همواره دیدید من آن تکه از تویان در درونتانم مرا حس کنید و بیدار شوید در آن ریسمان برگردن، در درون دست در زنجیر مرا بیدار بخوانید و فریاد زنید من در میان هوا و زمینم همتای این جان برخس آمده در آسمان در میان مرگ باز هم همان ندای پرتکرار خاموشمانده را میخوانم تنها کافی تا ذره ای از این حیاهوی جهان دور بمانید تنها کافی تا لحظه هیشتن را دریابید. صدای من درون شماست. صدای نوزاد این عشق را نیز خواهید شنید. در میان تکان پای بردارم نیز آرامش کوچک را خواهید دید. او امروز کودک است و فردا بالغ همه جهان را خواهد داشت. آر این تلاتم عشق دو دور مانده است، این آن عشقی است که به دروغ شما را از وسالش ترساندند. خاطرت هست مدام از عشق در دور دستها خواندند یادت آمد چگونه برایت از نرسیدنها گفتند اما من میخوانم و این جنازه بردارم نیز خواهد خواند که وسال برابری و آزادی حتمی است فرزند خلف این عشق آرامش است آرامش را حال که ندایی در تن نیست، حال که ریسمان برگردن است، حال که فریاد را به درون خوردهند نیست، خواهی شنید. بشنو من بیدار در جنازهی دوباره خواهم رویید. در میان همان ریسمان برگردن ها، در دست دردمندان، در فریاد آزادگان، در یاغیان بیدار من دوباره خواهم رویید و ندا را به آسمان خواهم برد. صدای این دردمند بی درد را خواهید شنید که جهان را در نوردیده است ندایش باران خواهد کرد و همه شهر سوخته را در خود سیراب خواهد کرد شهر سوخته دوباره از نو سراغاز خواهد شد که این وسال را در خود دیده است میگانداران یاقی به پیش آیید که دوره دوره شماست شما میدان را به دست خواهید داشت و فریاد زنان دنیا را دگرگون خواهید کرد. آرین جهان پیشرو برای ما دوباره خواهد خندید. دوباره به لبان لبانمان لبخند خواهد کاشت و دوباره همه از نو سراغاس خواهیم شد. بدان روز دور و یا نزدیک که به عزم ماست، مرانیز در میان خود خواهید دید. بر لبان کودکی که آرام است در میان دستان کارگری که دیگر نالا نیست برگردن شکاری که دیگر ریسمان نیست مرا در میان آرزوهایتان خواهید دید و دیگر لابه بس کنید که هنگامه میدان است زمانه جنگ است کتاب شهر سوخته اثر نیما سواری بخش چهارم ریسمانی بر جایی نمانده است تمام ریسمانهای در شهر سوخته را برای به داراویختن آزادگان خرج کردند برای به داراویختن آنان به مردمان شهر خواندند که به پیش آیید بیایید تا مالکان ریسمان از گردنتان برگیرند آزادی را فدیه می کردند در میدان شهر سوختان را می فروختند. گفتند تا مردمان به گرد میدان شهر درآیند. هر که به میدان آید آزاد خواهد بود آری ریسمان از گردن آنان برخواهند کند و کسی از خود نپرسید کسی نپرسید با این ریسمان ها آنان را چه کار؟ برای به داراویختن آزادگان ریسمان کم بود ددمنشان به توفه آزادی ریسمان از گردن مردم برکندند تا آنان را آزادی فدیه دهند حالا همه در میدانند آیا هم پیمان ما؟ دران راه دور در میدان تحصن به میدان آمده اند؟ آری آنان را هم دیدم، اما مدام فریاد می زدند. بر مردمان شهر سوخته می خاندند که ریسمان برگردن ما در اسارت برای بدار کشیدن آزادگان است. از دور بیشمار آزادگان دربند را نشان مردم می دادند تا ببینند این خوشرخصی مالکان از برای به آویختن آزادگان است. آخر شنیدم که عالمی را به خدمت گرفتند و او برانان خاند، به بدین طریقت نوظهور هم آزادگان را خواهید دارید و هم مردمان را به چنگ خواهید داشت. شاید همان وزیر دور بود که مردم را به حقارتی می آراست تا از حقارت بزرگی را پذیرا باشند. شاید همان تحفه از آزادی بود تا آزادی را از یاد ببرند تا باز هم دست به آسمان در تمنای حق خیش برایند دیدند مردم که ریسمان بر گردن خیش بر گردن آزادگان است آنان را در میدان شهر سوخت به دار میآویزند باز هم به نخست راه همان دنبال کردن ها بود دوباره آنان با تراوت هر چه مالکان می را ادامه می و شادمان بودند زندگی را به مرگ دیگران طالب شدند و مردم چه خوشخیال خیال آنان را باور کردند باور کردند که برای آنان خواهد بود همه آزادی که از اسارت دیگران پدید آمده است همه زندگی که از مرگ دیگران پدیدار شد آخر آنان همه ی عقل خیش را در برابر می دیدند می دیدن که ریسمان بر گردن دست متمولی رها شده است از گردن او میگیرند و بر گردن دیگری نهاده اند. حتی برخی را فرا تا خود این ریسمان را بر گردن آزادگان نهند برخی برای آزادی بیشتر بیشتر اسارت می‌دادند و آنان پیروز بر میدان‌ها بودند. آری آنانی که دست به خشونت بردند بر زیر چار پایه ها کوفتند. آنان بیشتر مالک بر آزادی شدند. آخر در این میدان داد و دیوانگی فروش آزادی دیگران و اسارت آنان آزادی ما بود. مایی که میگویم را می‌شناسی؟ همانانی هستند که عمری را در این ناخبری و نادانی نگاه داشته شدند و به درازای سالیانی آنان را آماده کردند که گردن در پیش در تمنای ریسمان خیش دیگران را به بند برند اینان آزموده بر این اسارت شدند و حال دراز زمانی است که همین در بند و زنجیر شدگان مجیزگوی مالکانند همه در پیش و به درازای تمام این سالیان آنچه خود نکردند و از خیشتن دریغ داشتند تمنا از دیگران میکنند. آری اینان خود هیچ به میدان نیستند و در تمنای به میدان آمدن دیگران حتی آنان را دشنام میگویند. آری مساف آموختن آنان این بود که میبینی که تو را آموختند. اینان تو را آموختند تا اینگونه سر به پایشان به تا آرزومند آنان باشی و خیشتن را فراموش کنی همه نقل در همین بود که میبینی همه از تو دور کردن خیش را فرا و تو را منزلی در این سکوت میداد تا خود را دور افکنی و در پی فرمان بزرگان باشی تفاوت میانشان تنها در خوی بیماران است همه یک مسیر را میروند و آدمی را به یک مسیر فرامی خانند حتی اگر بر راه اینان نزدیک بنگری همتای همراه بینی که تنها فریادشان بر سر درد در تفاوت است گاهی برخی به ناز چشم و محس کردن اسیر را فریدند و گاه به زنجیر و درد اما غایت که یکسان در میان است همه را فرا میخواند تا در این بند و زنجیرها خود را به باد سرنوشت بسپارند و بیچاره آدمیانی که فکر بر سرنوشتی کردند که شاید دگرگون بود. نمیدانستند همه را بزرگی در آرزوی خیش نگاه داشته است و بر آنان میخواند. سخت از درد که بسیار و بی پایان بود. لیک من آنان را به میدان دیدم. از آن روز نخستیم و آن فریادها که به میدان فریاد کردند و درمان را فراخواندند. درمان از میان برداشتن ریسمان ها بود، دریدن زنجیر ها بود، خواندن راه تازه بود، تاره ها برابر شویم، تا به قیمت بودن برابری آزادی را به آغوش بریم. آن روز نخستیم و آن فریاد ها که در میان میدان از آن گذشتند و هیچ ندیدند، آریان روز را به خاطر دارم و او آغازگر این راه طولانی بود، او آمد و در دست از جان به شهر سوخته مرهم شد مردمان را فراخواند که با تن و این جان آزاد میتوان آزاد کرد میتوان به یمن بودن برابری آزادی را میهمان کرد و مرهم بر جان این دردمند شهر سوخته بود او را به نخستش ندیدند و به پیش تأخیرش گفتند او بر جای ننشست و فریاد بود آنجا که او را تمسخر کردند، در قلب کودکی که زندگی را دیده بود بیدار گشت آری در میان نگاه او بود که پرواز کرد و بال گشود او در آنجا بارور شد و به میمنت وسال برابری و آزادی در میان زندگی آرامش را دید حال زمانه بسیاری است که تنها برای دریدن به میدان آمدند آنجای که به دار حوار ها بود و فریاد می‌زدند، باز هم ندایی همه جا را به خود فرا می برخیزید زمان زمانه بیداریست. نجوان ندا سر می‌داد و همه را به خود فرا می خاند. حال زمانه سوگ نیست و باید به میدان بود. باید سرود آزادی را سر داد. باید این جانان در کفن را به میدان داد و فریاد کرد. باید در برابر این دیف دیفخویان ایستاد و سرود زندگی را سرود؟ من همه را میبینم، همه در میدانند، هزاری رنج آمده تا آنان را فرو نشاند، نام ننگین دور دستان هر بار آمده تا ریسمان گذشته برگردن اینان نهد، میبینی؟ میبینی چه پرفروغ از ریسمان طلا سخن میگویند؟ همه را فرا میخانند، که ما در آن دیربازان تناب تلاب گردن داشتیم و مصیبتا که امروز ریسمان از کناف بیارزش این دیورویان است باز هم در میان دستان همینان می بینم که به دنبال گردن می گردند. آن دور هم گردن به تناب دار دادند آنکه ریسمانش را دریده بود و حال هم در تمنای بیشماری روز را به شب بردند تا دوباره جماعتی در برابرشان سرخم کند و آنان را سوار بر گردهها بر عرش برساند اینان همانانند همان دیو رویان پیشتر از پیش و پس به نیش میآیند تا همه را در این زهر جانفرسا به غر خیش فرا بخوانند تا دوباره همه را در این ماتم به گردن ریسمان کنند اما این ندا برای از میان بردن ریسمان هاست آنکه در میان شهر ریسمان برگردن آتش زد و در میان سوختن تنش فریاد زد همه را فرا میخواند. که دیگر خیش را به دستان ریسمان داران پرزور نسبارید او ندامی میداد و ارتش تازهی پدید می آورد که یاغی بود یاغی بود از آن روز که چشم بر ریسمان در دست دید. آریان روز که کسی را به بند او درآوردند، او از آن روز ریسمان را درید نگردن خیش که دست را برای دربند داشتن نداشت این دست آمده بود تا آزادی را پاس دارد و در بند ندارد هیچ تنی که آزادی برابری است حالا باز هم ندای او در خیابان است از میان تن آتش گرفته تا آزادگان دربند از میان گردن‌های فراخ در برابر ریسمان بردار تا همه و همه فریاد آزادگی سر دادند. برابر به کنار یکدیگر فریاد می‌خوانند از آن راه رهایی که همه در میان آزادی و زندگی و برابری است. همه از برای زندگی به میدانند. میدان را هوار بودن خیش خواهند کرد. میدان را مسخ بودن خیش به تسخیر خواهند برد و آنان آزادگان فردایند شهر سوخت از خاکستر سر برخواست و نداداد او برای من خواند از یکایک فرزندانش در این خاک او برایمان از این راه پیروزی گفت که در میانش کسی را به اسارت نبردهاند. او همه را نشان داد که در اسارت دیگران کس آزاد نخواهد بود او آزادی را نشان داد و در میانش همه دیدند که آزاد با به میدان بودن پدید آمده است حال دور زمانی است که همه در میدانند همه ریسمان ها در آتش است. همه ریسمانها بر دست را آورده تا بسوزانند کسی در تمنای به اصارت کشیدن دیگران نیست کسی برده برای خود نمی خواهد که همه دانسته به بردگی دیگران برده خواهند بود و آزادی در آزاد بودن دیگران معنا خواهد شد و حال بنگر این راه با شکوه را ببین که میداندار امروز ما همانا آزادی مانده در وجود است، است. برابری زاده به ذاتمان است که از کودکی برای ما ندا داد و بیشمار مالکان زورگوی بدصورت آن را به هزاری فریاد زر و اشوهای زور فرو خواندند تا سرود آن نشنوید به خشونت تو را بردند و در خیش خواندند، به انتقام تو را میدان دادند و در خیش خوردند در کینه تو را پروراندند و در میدان بردند آنان در تمنای ساختن دیوانگانی برآمدند تا تاج و تخت آنان را حافظ باشد و ببین که خشونت را مدام فرا می خانند. آنان در پی بیدار کردن خودخواهیهایت برآدهند. نمیخواهند تو خویشدن بنگری که آنان طالب خودپرستی تو آمدند. آخر میدانند، پرستندگان در پی پرستش خواهند بود. خیش را می و به فردا در میدان این شهر دگر تنها ندای آزادی است که میداندار خواهد بود از میان ریسمان بردار آزادگان هزاری رویدند هزاری کرد از ترس تا خشونت از انتقام تا چینه از ریسمان و بندگی تا اسارت بود را از یاد بردند تنها ندای آرام کودکی از زندگی و جان را شنیدند تنها ندای آنان است که میدان داره است. تنها او خواهد خواند و آنان را فرا خواهد گفت که بشنوید این ندای آزادگان است. این صدای برجان است فرا میخواند تا به پیش باشید و حال میدان را ببین که همه در پیشند. شهر سوخت را دوباره خواهند ساخت. میدان تحصن به بودن بیشماران در رزم میدان ساختن دوباره خواهد بود ما باز هم ندا خواهیم کرد و در میدان بیشمارانی خواهی دید. کجاست میبینی؟ ناله کودکی را شنیده ای؟ حال در تحصن برای نبودن او به میدانند؟ برای ساختن زندگی او از جان گذشتند همه در میدانند تا دوباره و از هم بسازند زندگی را ندای خوش زندگی به گوش آواز میخواند و او از حسی وجود گفته است سؤال بیپایانت را پاسخ خواهد گفت که همه زندگی آزادی و برابری است هیچ فرایان در دنیا نیست آزاد بودنت آزادی دیگران است آنجایی که آزاد آنان را به میدان دیدی همه دنیا از آن تو خواهد بود و حال به پاسخ تمام پرسش ها در میدانند آنان که جهان را دوباره خواهند ساخت